بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخره ويتم من إعمته عليك ويهديك سراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا سورة مباركة فتح سورة فتح السورهاي مدنية هست از نظر ترتیب 111 سوره هست که بر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل شد سوره محمد که سوره قبل از این هست مبحث اصلی و بحث محوری جهاد بود در رابطه با جهاد با دشمنان و با کفار الله عزوجل فرمودند و در این سوره می خانیم که الله عزوجل فتح نسیم می‌فرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا فتح و پیروزی نتیجه جهاد هست نتیجه کار و تلاش در راه الله عزوجل هست اما برای اینکه این آیات را آیات اولیه این سوره مبارکه را بفهمیم نیاز هست که مقداری در رابط با مقدمه جریان و اتفاقی که قبل از نزول این آیات پیش افتاد یا به تعبیر اهل تفسیر در باره شأن نزول این آیات و این سوره مقداری صحبت بکنیم بحث, بحث بکنیم اینه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه طیب تشریف بردند شش سال بود که هجرت کرده بودند سال ششم بود هجرت کرده بودند و مکه را ندیده بودند و یکی از آرزوها و تمناهای آن حضرت صلی الله عليه وسلم مکه بود و تواف بیت الله بود و سفر عمره بود میدونید که مکه مکرمه یک کشش خاصی دارد یک جذابیت خاصی دارد اما برای رسول الله و اصحاب و یاران که مکه موتنشون بود شهر اصلیشون بود برای اونها مکه کشش فوقلادهی داشت و همیشه ان حضرت صلی الله و وسلم به فکر بودند که به مکه تشریف ببرند عمره بکنند تواف بکنند تا اینکه شبی در خواب دیدند که همراه با یاران سفر مکه داشتند سفر عمره داشتند و عمره کردند تواف کردند بعد از تواف صفا و مروه بعد از آن سرها را حلق کردند موها را حلق کردند تراشیدند یا قصر و کوتا کردن بعضی حلق و بعضی قصر و این را که در خواب دیدند خواب انبیاء وحی هست گویا دستور سادر شد گویا خداوند عزوجل مقدر فرمود که به این سفر تشریف ببرند آن حضرت صلی الله علیه وسلم آمادگی کردند و قصد سفر بیت الله را قصد سفر عمره کردند و اصحاب هم همراه شدند یاران هم همراه شدند اما بظاهر این سفر سفر پرخطری بود چون که سالها بود که با قریش مکه با مشرکین مکه جنگ داشتند درگیری داشتند و این جنگ ها و درگیری ها باعث شده بود که ده ها نفر از هر طرف کشته بشه لذا اداوت و بغض و کینه و تهدلی روز بروز بیشتر میشد. از طرفی آن حضرت صلی اللہ علیه و دلشون می میخواستن که این مخالفت ها را این دشمنی ها را کم بکنند این مقدم دوم که می خواهم ارز کنم قابل توجه هست دقت بفرمایید آن حضرت صلی الله عله وسلم بعد از اینکه به مدینه طیبه هجرت کردند جنگهای زیادی بر ایشان تحمیل شد در سال دوم جنگ بدر را داریم در سال سوم جنگ احد هست در سال چهارم خیانت قبیله بنونظیر و مهاصره بنونظیر و جلاوطن کردن اونها یهودیها در سال پنجم جریان خندق و محاصره مدینه توسط کفار و مشرکین و یهود و منافقین و همه احزاب دست به دست هم دادند در سوره احزاب می خانیم در سال پنجم این اتفاق افتاد بعد از اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم خیانت یهود را در سال پنجم متوجه شدند و بر قرائزه حمله کردند بنو قرائزه را محاصره کردند بنو قرائزه تسلیم شد مردانشون کشته شدند فردی یا افرادی از بنو قرائزه گریختند و خودشون را به خیبر رساندند. خیبر با مدینه منور فاصله داشت اونجا یک یهودی شرور رفت و عمدهای زیادی با اهل مکه داشت و با اهل مکه چون این زمان از مسلمانان احساس خطر می مسلمانان قوی شده بودند. لذا با اهل مکه این معاهده را به بخاطر اینکه چون یهود از اطراف مدینه کلن رانده شدن تبعید شدن سال دوم بنو تبدیل قنق... طب... تبعید شد سال چهارم بنو نذیر تبعید شد سال پنجم بنو قریزه متلاشی شد فقط در خیبر منده بودند. آنها احساس خطر می کردن که مسلمانان اگر به خیبر حمله کنند براحت ما را از بین میبرند. برند. بنابر این ها رفتن به مکه و با اهل مکه معاهده بستند که هم مکه محفوظ بماند، هم خیبر محفوظ بماند. معاهده چی بود؟ گفتند اگر یه وقتی رسول الله صلی الله علیه و و صحابه به مکه حمله کرد. یهود و خیبر وظیفه دارند در همون شرایط به مدینه حمله کنند و مدینه را تصرف بکنند اگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم به خیبر حمله کرد اهل مکه و مشرکان مکه هم به مدینه حمله کنند مدینه را تصرف کنند یعنی مسلمانان همیشه در خطر باشند جرأت نکنند نه به مکه حمله بکنند نه به خیبر حمله بکنند این دسیسه بود و این ای بود که این توطئه را یهودیها در خیبر چیده بودند با مشرکان مکه پیمان بسته بودند خب شرایط هم شرایط خوبی نبود برای مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیخواست که بیشتر بین ایشون و بین قریش مکه درگیری بشه جنگ بشه آن حضرت میخواست که یه مقدار شرایط را تلطیف بکنن شرایط و موج را پایین بیارند و دشمنی ها اختلافات کاسته بشه بنابراین از یک طرف عمره اما از یک طرف عداوت دشمنی آن حضرت صلی الله علیه سلام هم نمیخواست جنگ بشه آن حضرت از جنگ گریز میکرد به همین دلیل وقتی که اهل مکه متوجه شدند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم داره میاد به طرف بیت الله و به طرف خانه کعبه و به منظور عمره اهل مکه آمادگی کردند برای جلوگیری گفتم ما به هیچ وجه نمیگذاریم و اون مسیر اصلی و راه اصلی که داشت میرفت، به طرف اون راه را افتادن آن حضرت صلی الله علیہ وسلم عمدن و قصدن مسیر را کج کردن از اون راه اصلی که به مکه می نرفتند، از یک راه دیگر که راه فرعی بود و این راه همین راهی هست که به طرف مکه از طریق حدیبیه میرن که شمسیه میگویند به اون حدیبیه محل حدیبیه و این حدیبیه تقریبا بر حدود حرم هست اما در مسیر مکه و جده هم واقع میشود کسی که میخواد از مکه به جده برود هم در مسیر هست در از این طریق آن حضرت صلی اللہ رفتند و در حدیبیه چادر انداختند و اینجا منتظر ماندند و نخواستن جنگ کنند برای مذاکره کسی را فرستادند کسی را که فرستادند سیدنا عثمان الزنورین رضی الله تعالی عنه بود سیدنا عثمان را که آن حضرت صلی الله علیه و فرستادند هم صلح را و توافق را در نظر داشتند به هیچ وجه آن حضرت مصلحت را در جنگ نمی دیدند خب انتخاب عثمان به چند دلیل بود یکی این که عثمان رضی الله تعالی عنه فردی بود بسیار نرم خو احساساتی نمی‌شد هیچ وقت آرام بود نرم بود و با وقار بود و احترام یکی از تجار بود احترام خاصی پیش همه عرب ها داشت و دلیل دوم این که عثمان رضی الله تعالی عنه از اموی ها بود و اون روز در مکه مکرمه حکومت هم مال امامیها بود. ابو سفیان رضی الله تعالا نه که به عنوان سردار مکه و ریش سفید و مؤثمین بزرگ مکه بود، خب سردار بن امیه هم بود. از قبیله سیدنا عثمان رضی الله تعالا نه بود. لذا عثمان را که فرستاد آن حضرت صلی الله السلام همه این نکات را و همه مسائل را مد نظر گرفتن لذا عثمان رضی الله تعالی عنه تشریف بردند وقتی که اونجا تشریف بردند اهل مکه گفتند ما به هیچ وجه وقتی که وارد مذاکره شدند گفتند ما به هیچ وجه اجازه عمره نمیدیم اجازه طواف نمیدیم برای ما ذلت است برای ما بد هست طرف کنده میشیم که بعد از این همه جنگ ها، بعد از این همه دشمنی ها بترسیم از شما و شما بیایید از یک طرف هم میترسیدن شما بیایید اینجا عمره بکنید، تواف بکنید بنابراین ما به شما اگر میخواید اجازه میدیم اما به لشکر اجازه نمیدیم سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ نپذیرفتند گفتند من هرگز بدون رسول الله صلی الله علیه و نه عمره میکنم نه طواف میکنم بالاخره آنها معروف کردند که عثمان رضی الله تعالی عنہ را کشته اند شهید کرده اند و این شایعه وقتی که افتاد و مسلمانان شنیدند آن حضرت صلی الله علیه و وسلم شنیدند این شایعه یک احساس خاصی و تحریک خاصی در میان مسلمانان ایجاد کرد خدای عزوجل کارهای خودش را بهتر میدوند. این شایعه را اونها کردند اما این شایعه به zararشون تمام شد چون وقتی که جاسوسهاشون خبر بردن دیدند که مسلمانان چقدر ناراحتن. چقدر احساس احساساتی هستند و این شیران چطور می و اونجا در زیر اون درخت چطور با ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کردند و چه حضوری چه آمادگی از خودشون نشان دادند. قبلاً هیچنو تمایولی همونطور که ارز کردم برای جنگ نبود. شرائط در کل شرائط جنگی نبود. در کل شرایط مناسبی نبود. هیچ هیچنو روحیهی برای جنگ وجود نداشت. اما وقتی که این شایع افتاد، این اتفاق افتاد، آمادگی کامل از نظر روحی روانی ایجاز شد. آماده بودند که هر نوع قربانی و هر نوع فداکاری بدند و نگذارند که خون عثمان زایه بشه اینجا بود که آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیعت گرفتند این بیعت که قرآن کریم اعلام رضایت کرده از اهل این بیعت این بیعت نامگذاری شده به بی بیعت الرزوان بیعتی که رضای پروردگار بر این بیعت اعلام شد بیعتی که این بیعت برای جهاد بود آن حضرت با همه بیعت کردند و سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ چون حضور نداشت غائبانه بیعت عثمان انجام گرفت آن حضرت دو دست خودش را یکی به عنوان خودشون و یکی به عنوان سیدنا عثمان به هم و بر روی هم قرار دادند و این بیعت گویا از طرف عثمان هم انجام گرفت اما با وجودی که این بیعت انجام گرفت آمادگی شد و مسلمانان کاملا آماده جنگ بودند اما با وجود این ان حضرت صلی الله علیه و سلم پیشنهاد صلح دادند پیشنهاد توافق دادند آتش بس دادند دیروز هم خواندیم که هر وقتی که شرایط جوری بود شرایط طوری بود که جنگ به نفع مسلمانان نبود کسی که در رأس مسلمانان هست میتواند تدبیر بکند و جنگ را به پایان برساند، آتش بس بکند تا که تلفات بیشتری متوجه مسلمانان نشود. اینجا عرض کردم قبلا مقدمتاً که ها معاهده بسته بودن یهود خیبر که اگر اینها با شما حمله کردند ما به مدینه حمله میکنیم. و اگر یه وقتی به ما حمله کردن شما به مدینه حمله کنید از اون طرف هم ان حضرت احساس خطر می کردن نمی جنگ کنند لذا فرمودند که ما آماده هستیم ما جنگ را دوست نداریم اینجا حرم امن الهی هست آماده هستیم که با توافق و با صلح چیکار کنیم عمره بکنیم توافق بکنیم. مشرکانم از خدایشون چنین توافقی بود، از خدا میخواستن چنین توافقی بشه چون اونها هم دل جنگ نداشتن، اونها هم در جنگ های گذاشته پیاپی شکست خورده بودند و جرأت نداشتن، لذا آماده شدن که صلح بکنند، اما چون که نفس بسیار متکبرانه ای داشتند شرایط را بنافع خودشون پیشنهاد دادند آن حضرت صلی الله علیه و شرایط را پذیرفتند لذا نماینده خودشون که سهيل ابن عمرو رضی الله تعالی عنه و را فرستادند آن حضرت همونطور که قبلا عرض کردم از اسم ایشون و از نام ایشون که از ماده سهل گرفته شده آن حضرت نیکفالی گرفتن برای اینکه خداوند امر ما را سهل میفرماید کار ما را آسان می فرماید او وقتی که آمد شرایت بسیار شرائط ناجوری بود یک طرفه بود ظالمانه بود مثلا یکی از شرایط این بود که امسال که آمدید احرام بستید آماده ی عمره هستید ولی امسال نه امسال اجازه نمیدیم امسال برگردید از همه شرایط این شرایط سنگینتر بود سختتر بود، بل خصوص برای خود رسول الله صلی الله علیه وسلم که آرزو داشتند در خواب دیده بودند، از چند سال بود منتظر بودند. پس امسال اجازه ندارید عمر بکنید. دو سال آینده بیایید و سال آینده که آمدید غیر از شمشیر هیچ ای با خودتون همراه داشته نباشید. سه سال آینده وقتی که آمدید فقط سه روز میتونید در مکه بمانید از سه روز بیشتر هم اجازه ندارید چار از این به بعد این صلح البته تا ده سال تا ده سال معاهده صلح بود که تا ده سال ما با هم دیگه جنگ نداریم با هم دیگه صلح داریم اما از این به بعد اگر کسی از طرف ما گریخت مسلمان شد به طرف شما آمد به مدینه آمد وظیفه دارید که او را برگردانید اما اگر از طرف شما کسی به سوی ما آمد به سمت ما آمد ما بر نمی‌گردانیم این شرایط شرایط یک طرفه ظالمانه آن حضرت صلی الله علیه و وسلم مصلحت را در این دیدن و این را هم ما دانیم رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر خدا هستند و پیامبر خدا هر کاری را انجام میده با وحی انجام میده با راهنمایی پروردگار انجام میده لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم این شرایع را پذیرفتند این شرایع برای صحابه بسیار سنگیم بود بسیار سخت بود برای بسیاری از افراد غیرتمند افراد شجاع افرادی که ایمان بسیار قوی داشتند اما فقط بظاهر نگاه می‌کردند آن حضرت صلی الله علیه وسلم چیزهای از طرف خدا میدانست. لذا امثال سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی او برای اینها خیلی سخت اصلا قرار نداشت آرامش نداشت پیش حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه رفت و دلش را خالی کرد گفت آیا مگر ما بر حق نیستیم فرمودند که بله آیا مگر مشرکان بر باطل نیستند فرمودند بله آیا اگر ما کشته بشیم شهید نمیشیم به بهشت نمیریم فرمودند بله گفت اگر اونها کشته بشند نمی با کفر نمی میرند به جهنم نمی میرند گفتم بله همه سوالات جوابشون درست بود پس چرا ما تن به ذلت بریم حضرت وقت تسلی دادند رسول خدا قبول کرده پذیرفته ما چاره ای جز تسلیم نداریم بالاخره شرایط را رسول الله پذیرفته ما باید صبر بکنیم صحابه صبر کردند واقعا جریان حدیبیه بسیار جریان سختی بود دو تا جریان بسیار جریان سختی در زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود اما هر دو تبدیل شدم به دو تا از بزرگترین فتوحات و بزرگترین نصرت یاری خداوند اول هجرت که رسول الله صلی الله علیه و مجبور شدن مکه را ترک بکنند خیلی سخت بود کلماتی که در روایت می آید وقتی آن حضرت از مکه بیرون شدند و مکه را خطاب کردند و در اون خطاب معلوم میشه چه دلبستگی چه وابستگی چه محبتی نسبت به مکه داشتند و با چه خون دلی مکه را ترک کردند انسان متوجه میشه هجرت چقدر سخت بود و دوم اینکه همون مکه را بعد از شش سال آمدند که تواف بکنند و عمره بجابی آورند خانه خدا را زیارت بکنند باز هم نگذاشتند این هر دو سخت بود اما این هر دو سختی تبدیل شد به بزرگترین فتح به بزرگترین موفقیت به بزرگترین نصرت و پیروزی از طرف الله عزوجل لذا صحابه صبر کردند رسول الله صبر کرد بعد از این که قرار شد برگردند خب باید خودشون را حلال میکردند از احرام بیرون میامدند باید خونی که به عنوان خون حلت هست خارج شدن از احرام هست اون خون را میریختند گوسفند را میکشتند سرهایشون را حلق میکردند و برمیگشتند آن حضرت دستور دادند این کار را بکنند کسی نرفت سر خود را نتراشید حلق نکرد با ام سلمه گلایه کردن حضرت تو خیمه که کسی چون صحابه احساساتی بودن کسی حرف گوش نمی کند ام سلمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کردی یا رسول اللہ اینها حق دارن اینها ناراحت هستند شما خودتون برید تو میدان اول سر مبارکتون را حلق بکنید بقیه که ببینند بقیه هم این کار را خواهند کرد. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از خیمه خارج شد در میدان حدیبیه سر مبارکش را حلق کردند صحابه وقتی که مشاهده کردند نامید شدند یکی یکی آمدند و تمام سرهاشون را حلق کردند و با دلی شکسته شمسیه را حدیبیه را به سوی مدینه ترک کردند اما وقتی که سوار شطور شدند و راه افتادند یا هنوز راه نیفتاده بودند این سوره از اول تا آخر آن حضرت صلی الله علیه و سلم ناظر شد. خداوند مجد داد این سلح را، این شرایط را که شرایط بسیار ظالمانه یک طرفی بود از سوی مشرکان خداوند مجد داد که این فتحی برای شما هست. بس مراد از ان فتحنا لك فتحا مبينا فتح, فتح مکی نیست فتح دیگر نیست صلح حدیبیه تعبیر به فتح شده و در روایتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و salam فرمود حدیبیه از اعظم الفتوح هست از بزرگترین فتوحاتی که نصیب من و یاران من شده حدیبیه هست اما اینکه حدیبیه چگونه فتح بود و چگونه به نفع مسلمانان تمام شد خدمت شما این را هم عرض می کنم اولا اون توتعه یهود که اونها با هم توتعه بسته بودن اون نقش براف شد رسول الله صلی الله علیه وسلم در یکم زیقاده سال ششم به حدیبیه تشریف آوردند بعد از این قعد زیهجه هست سال ششم دیگه تمام میشه بعد از زیهجه محرم سال هفتم شروع میشه لذا بعد از اینکه با مشرکان قرارداد بسته شد که تا ده سال ما با هم دیگه جنگ نداریم خود به خود راه برای فتح خیبر هموار شد مسیر برای فتح خیبر هموار شد چون خیبر چیزی نبود اونجا کسی را یهود نداشتن اما مال زیاد بود. مسلمانان می با اون سرمایه خودشون را و سپاه خودشون را تقویت بکنند. از نظر اقتصادی وضعشون خوب بشه. پس اولی منفعتش این همین جا در خیبر در هده هنوز نرفتند خداوند مجد اون فتر را داد. چون که الان که پیغمبر خدا صلی اللہ بر اهل خیبر حمله بکند اهل مکه دیگه نمیتونن اهل مکه نمیتونن به مدینه حمله کنند تازه عهد بستن تازه پیمان بستن تا ده سال به هم دیگه تعروز نکنند این زمینه فتح خیبر فراهم شد در اول همین سوره الله عزوجل مشد داد مجده غنائم خیبر را دادند و علاوه از این که مجده غنائم خیبر را دادند خداوند فرمود اون غنیمت ها اختصاص به همین گروه دارد به همین هایی که اینجا بودند چون که قبلا خدمت شما ارز کردم منافقین در جنگ های همراه می شدند که اونجا امیده غنیمت داشتن در جنگ هایی که سخت بود و احتمال درگیری و مرگ و میر بود تو اون جنگ ها نمی آمدن بهانه می کردند تو همین سوره می خانم که برای خ... برای نی نیامدن به مکه آمدن. هیچ که از منافقین اینجا همراه نبود همه اینها مسلمانان مخلص بودند اما اونجا قطعا همراه می شدند و همراه هم شدند اما خداوند فرمود نه اونخ غنایم خیبر مال همین افراد فقط همین گروهی که اینجا هست غیر از اینا کسی نمیتونه اونجا همراه بشه هر کاری کردن منافقین منافقین اجازه ندادن که همراه بشه دوم زمینه دعوت اسلام فراهم شد اینکه ما همیشه با کفار در جنگ و ستیز و درگیری باشیم همیشه شرایط ما شرایط جنگی باشد شرایط درگیری باشد این شرایط شرایط خوبی نیست چون ما نمیخواهیم که معارف خودمون را ایمان را عقائد را دین را قرآن را به زور متوسل بشیم و عرضه بکنیم هیچ وقت ایمانی که ایمان جبری باشد ایمانی که بالاجبار باشد نه از نظر خداوند اون مقبول و پسندیده هست نه برای ما اون پسندیده هست لذا باید شرایط شرایط سول باشد شرایط شرایط عادی باشد اونها ببینند و با اختیار خودشون اختیار بکنند لذا دومی فایده این شد که این شرایط جنگی و شرایط دشمنی تمام شد رفت و آمد آغاز شد داد و نشست و برخواست سفر اهل مکه به مدینه برو اهل مدینه به مکه برو صحابه میرفتند مکه و اهل مکه مدینه پیش خیشاوندان برای تجارت برای کارهای دیگه وقتی که این رفت و آمد شد نه تنها قریشی ها رفت و آمد را شروع کردند بقیه اقوام بقیه قبایل اونهایی که تابع بودن انهایی که در این معاهده همراه شدند همه شروع کردند دیری نگذشت که اسلام و محبت اسلام در قلب همه جای گرفت چون که صحابه رسول الله صلی الله علیه و وسلم تربیت شدگان رسول الله تربیت یافتگان مکتب رسول الله چنان اخلاقی از خود نشان دادن چنان حسن ای از خود نشان دادن چنان رفتاری که اونها عاشق شدن اونها گرویده شدن سبحان الله این انسان هم اون انسان هایی که قبلا با ما بودن نیستند اینها صفات فرشته دارن اینها چقدر خوبند چقدر اخلاقشون خوبه ما بی خود این همه سال با اینها دشمنی می کردیم لذا یک محبت عجیبی در دلها ایجاز شد و این محبت باعث شد که بیشتر از اسلام بفهمند قبلا سرداران کفر و شرک سعی می کردن دشمنی ایجاد بکنند سعی می کردن که درگیری ایجاد بکنند تعصبات ایجاد بکنند این تعصبات به نفع اونها بود کسی در تعصبات و در زد و اناد نمیتونه تحقیق بکنه اما وقتی که شرایط شرایط سول شد شرایط رفت و آمد شد بل اخره آنها با دید واقعی نگاه کرده این وقت کی بود که می دیدی و رایت الناس يدخلون فی دین الله افواجا گروه گروه جماعت جماعت می آمدند و چی می شدند مسلمان می شدند تا اینکه در حدیبیه کسانی که در حدیبیه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند 1400 نفر بودند بعضی میگن هزار و نفر ولی بیشتر گفتن هزار و نفر هزار و نفر اینها نتیجه دعوت رسول الله در این نوزده سال گذشته است سیزده سال در مکه بودند شیش سال هم در مدینه بعد از هزار و ببخشید بعد از نوزده سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با لشکری که 1400 نفر بودند آمدن به حدیبیه مسلمانان مومن و مخلص همین ها بودند اگر که باقی مانده بود همه آمده بودند یا منافقی نی آمدند اما دو سال بعد از اینکه مکیفت مکه فتح شد. اون شد در سوره توبه هم می خوانیم که چرا مکه فتح شد چونکه مش، مشرکین نتونستن پایبند بمانند این صلح را این معاهده را مشرکین نقض کردند مشرکین از بین بردن چونکه نقض کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم احمد و مکرافت کردند گناه گناه آنها بود ولی دو سال بعد از اون اتفاق افتاد در فتح مکه رسول الله صلی الله علیہ وسلم با سپاهی و لشکری ده هزار نفری رفتند یعنی شما ببینید هزار و نفر بعد از نوزده سال در ظرف این دو سال جمعیت رسید به ده هزار نفر چون فتح مکه در سال هشتم بود و این هم در اواخر سال ششم هست یعنی سال شیشم تمام شده سال ف... هفتم شروع شده، سال هفتم، سال هشتم در ماه مبارک رمزان مکه مکرمه فاتی شده با ده هزار نفر، پس قطعا این برکت برکت صلح هدیبیه هست این صلحی که صحابه اون را به ضرر خودشون میدانستند الله عز وجل این قد برکات درش گذاشت فقط یک عبارت عبارات زیاد استن یک عبارت امام زهری رحمه الله که ایشون استاد امام بخاری هستند در رابطه با برکات این صلح و اینکه چرا این فتح مبین هست خدمت شما می خانم قال زهری لقد كان الحديبيه اعظم الفتوح حدیبیه همان گونه که رسول الله فرموده اعظم الفتوح است بزرگترین فتح است و ذالک ان النبی صلی الله علیه و سلم جاء الیها فی 1400 بین دلیل که رسول الله به بی حدیبیه تشریف آوردند با لشکر 1400 نفر فلما وقع الصلح زمانی که سلح واقع شد مش الناس بعض هم فی بعض مردم رفت و آمد را شروع کردند نشست و برخواست شروع شد و علمو و سمعو عن الله در خدا در باره احکام خدا در باره عقاید اسلامی در دین از هم دیگه گفتند شنیدند یاد گرفتند فما اراد بعد, بعد الاسلام الا تمکن منه لذا هیچ کسی بعد از این اراده اسلام را نمی کن مگر در قلبش اسلام جا می گرفت. مسلمان می شد. فما مزد تلك سنتان الا والمسلمون جاؤو الى مکه في فی عشرت این سپری نشد مگر در فتح مکه ده هزار نفر آمد. پس این هست برکات فتح. البته این را خدمت شما هم عرض کنم که این هم از برکات فت بود و هم از برکات تربیت رسول الله صلی الله علیه و وسلم صحابه را همان گونه تربیت کرده بود که الله عز وجل می‌خواست این اثر اخلاق صحابه صداقت صحابه تقوای صحابه اکرام صحابه راستی و درستی اونها در معامله در همه مسائل و امور باعث شد که انها چنان متأثر بشند لذا الله تعالی می فرماید ان فتحنا لك فَتْحًا مُبِينَا همانا ما فتح کردیم برای شما فتح مبینا، فتح مبین فتح سریحی هست روشنی هست و فتح بمعنی فیسله هم می ما فیصله کردیم. فیصله روشنی. اون فیصله این هست که شما موفق شدید. شما پیروز شدید. خدای عز و جل بدنبال این فتح چهار چیز برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیان می فرماید. یک لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر گرچه صبح هم در باره اسمت انبیاء ما خاندیم پیغمبر و پیغمبران از گناه معصوم هستند بسیاری گفتند مراد زمب زمب سوری هست زلت لغزش صبح در بحث سیدنا آدم علیه صلی و سلام خاندیم که زلات انبیاء وجود دارد کاری که خلاف اولا باشد سوی انبیا صادر میشه اما گناهی که موجب نارضایتی پروردگار باشه نه اما بعضی دیگه گفتند که خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلام را هست مراد صحابه است البته والمراد بالذم ما فرط من خلاف الاولى بالنسبه الى مقامه عليه السلام خلاف اولى نسبت بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعضی گفتم از قبیل حسنات و ابرات سیه تمام توجیهات را قبلا ارسال کردم اما بهترین توجیه نظر میاد که همین که اینجا خداوند پاد خداوند داره پاداش ذکر می ذکر این پاداشها هم برای رسول الله، هم برای صحابه. این پاداش اول است، این بیشتر زیبنده صحابه هست. چرا؟ چون رسول الله گناهی ندارد، از گناه پاک است. وقتی که ایشون از گناه پاک است، ایشون خطاب شدن مراد اصحاب ویارانی شهستند. و بعد اولین پاداش و جایزه اینه که این صلح بسیار سنگین تمام شد بر دلها گران تمام شد و وقتی که بر دلها گران تمام شد چون که فیصله رسول الله بود امر خداوند عزوجل بود صبر کردند حرکت دیگر از خودشون نشان ندادند در مقابل این صبر خداوند گناهان گذشته و آینده را بخشید پس کسانی که در حدیبیه بودند انها را خداوند گناهشون را بخشید و بعد از اینکه گناهشون را بخشید اعلام رضایت هم کرد ان آیت الله آیه رضوان را هم میخانید در همین سوره پس ان یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر پاداش اول انعام اول جایزه اول در مقابل چی هست؟ در مقابل این صبر و شکیبایی که از خودتون نشان دادید و تسلیم فرمان ربتون شدید نعمت دوم و يتم نعمته عليك و نعمت خود را خدای عزوجل بر شما تکمیل می کند اون نعمت چیه؟ نعمت فتح هست. یعنی این اشاره بر این هست که این فتح، این سلطه، این معاهده، این قرارداد وسیله نعمت های دیگه میشه. اون نعمت های دیگر یکی از اونها فتح هست، پیروزی هست. از این به بعد دشمنان شما خار و زبون میشنند، شکست میخورند. شما پیروز میدان هستید. من جمله اون پیروزی ها فتح مکه هست خیبر هست غنائم خیبر گرد خیبر را خداوان بعدا تسریح هم می و یهدیه که سراطم مستقیما این نعمت سوم هست نعمت دوم جلب منفعت هست نعمت سوم دفع مذرت هست اونجا موفقیت است یهدیه که سراط مستقیما نفع مغلوبیت است یعنی خداوند اززا و شما را به راه درست راه نمائی می کند اون که درست است اون راهی که درست است اون معاهده و قراردادی که درست است خدای تعالی اون را جلوی شما قرار می دهد. و بعضی گفتند وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا یعنی يثبتك على الْهُدَى خدا من شما را بر هدایت صبات این آیت می فرماید وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا بعضی می اینجا وقتی که منافقین دیدن که چون منافقین اولا انتظار نداشتن مسلمانان یک نفرشون حتی برگرده گفتند خودشون را خودشون بردند خودکشی هست نمی خودکشی کردند خودشون را در دهان اجدهان انداختند رفتن تو خونه مشرکان تو شهرشان بدون هیچ نوع امکاناتی قطعا یکی زنده بر نمیگرده این هم گفتند این آرزوشون هم بود چنانچه میخانیم آرزویشون هم همین بود تمنایشون هم همین بود همین گفتند وقتی که رسول الله صلی الله علیه سلم سل کردند پیمان بستند برای ده سال قرار شد که جنگی هم نباشه تو این ده سال دیگه کلی تقویت می شوند وقتی که این پیمان بسته شد دیگه منافقان حرفی برای گفتن نداشتند منافقان ملامت بودن اما یه چیزی دیگه گفتن گفتن خب دشمن تنها اینا نیستند دشمنهای بزرگی داری ابرقدرت ها هستند اونها دندان تیز کردند برای ما هم ایران هست روم هست ما را نمیذارن که ما زنده بمانیم ما را نمیذارن که ما برنامه خودیمون را بپیش ببریم اینه که گفتند در مقابل اونها خداون فرمود و الله کالله نصرا عزیزا خداوند شما را یاری می فرماید چنان یاری کردنی که غالب باشید بر همه بر همه دشمنان شما غلبه پیدا کنید خب این بشارت اول بود که به برکت این فتح این فیصله این صلح خدای عزوجل چهار انعام به شما عنایت کرد بشارت دوم بشارت دوم خدا تعالی فقط این نعمت های معنوی را عنایت نکرد بلکه از نظر سکون و آرامش هم سکینه بر قلب مؤمنان نازل فرمود هو انزل السکینه في قلوب المؤمنین الله هست که انزل نازل فرمو سکینه را در قلوب مؤمنان نه در قلوب مشرکان نه در قلوب منافقان علت نزول سکینه چی هست؟ لیزدادو ایمانم مع ایمانهم تاکه بی افضایت خداوند اضافه بفرمایت ایمانی را بر ایمانشان مراد از ایمان اینجا یقین هست یقین هم جز ایمان هست جنان چه نویشتان یقینا مع یقینهم برسوخ العقیده و اطمینان النفس علیها خداوند سکینه نازل فرمود تا یقینشون بیشتر بشه باورشون بیشتر بشه قبلا هم یقین داشتن قبلا هم ایمان داشتن ولی اضافه بشه ولله جنود السماوات والارض این جمله موترزه هست عرض به خدمت شما که این جمله معترضه هم در جواب منافقان بود. منافقان می گفتند، هنوز دشمنان قوی ما دارین. دلتون خوش نباشه. چنان دشمنان قوی هستند که دنیا از حیبت اونها می لرزد. الله در جواب فرمود، ولی الله جنود و سماوات خداوند خداون دارد لشکریان آسمانی و زمینی. لشکریان آسمانی کی هستند بنویسید ملائکه لشکر یان زمینی کی هستند صحابه رسول اللہ بنویسید خداوند دو نو سپاه دارد دو نو لشکر دارد اونایی که آسمان هستند ملائکه هستند فرشتگان هستند اونایی که در زمین هستند مومینین هستند مخلصین هستند یاران رسول اللہ صلی الله علیه و سلم هستند و کان الله علیما حکیما خداوند علیم هز هر چیز را میداند و کارهای پروردگار همرا با حکمت است خدا هر کاری می کند از روی حکمت می کند انسان از حکمت بی خبر است انسان ظاهر را نگاه می کند لذا بعدا متوجه شدیم و متوجه شدند که چه حکمت تو این کار بود وكان الله عليما حكيما فايسلمي فرما از روی علم و از روی حکمت المؤمنین المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ان سماره سكينه است نتیجه سکینه است هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين الله سکینه را در قلوب مؤمنین نازل فرموده نتیجه می مش سکینه میشه لی یتخلل مؤمنین مؤمنین رب اطاعت با این توفیق طاعت و بندگی و اطاعت پروردگار داخل می هم مردان مؤمن و هم زنان مؤمن را در اون جناتی که اوصاف جنات در قرآن آمده تجری من تحت الانهار خالدین فیها از زیر اون جنات درختانش قصورش نهرها جاری هست همیشه در آن جنات ماندگارا و یکفر عنهم سیئاتهم خداوند سیئات را و خطاهای را و لغزشات را هم کفار می فرماید محو می فرماید و کان ذلك عند الله فوزا عظیما این پیش خداوند عز و جل فوز بسیار بزرگی هست کامیابی بسیار بزرگی هست و کان زالک زالک یعنی چه؟ بعضی گفتن این ورود به بهشت بعضی گفتن این کفاره سیعات و تکفیر سیعات هر دو میتونه باشه اینکه خداوند سیئاتشون را تکفیر میفرماید و وارد بهشتشون میگرداند این فوز بسیار بزرگی هست موفقیت بسیار بزرگی است. هیچ موفقیت از این بزرگتر نمیتونه باشه و نتنها مؤمنین را نجات میده و به بحش می برد دشمنانشان را بدخواهانشان را این منافقانی که هر لحظه در انتظار هستند که برای مسلمانان مشکلی پیش بیاد انها را خدای تعالی عذاب میده مشرکان را خدای تعالی عذاب می ده و یعذب المنافقین والمنافقات و تا این عذاب بده خدای عزوجل مردان منافق و زنان منافق را و والمشرکات مردان مشرک و زنان مشرک کدوم مشرکین و مشرکات کدوم منافقین و منافقات الظنین بالله ظن السوق انهایی که گمان دارند نسبت بخدا گمان بد دارند ببینی گمان ها متفاوت و گمان ها هم مختلفه مثلا یکی از گمانها و زن سوء مشرکان چی هست؟ شریک برای خدا همسر برای خدا فرزند برای خدا نائب و معاون برای خدا این از گمانها بد هست این هم میتونه تفسیر باشه اما چون اینجا بحث بحث جهاد هست بحث حدیبیه هست گمان دیگری که منافقان داشتند اینه که اینها هیچی که جان سالم در نمیبرند. گویا نسبت به خدا گمان بد داره که بندگان خودش را رها می کند خدای اززوجل بندگان خودش را تلف می کند این بندگانی که در تمام زندگی خودشون با اخلاص برای خدا هم هجرت کردند، هم جهاد کردند، هم تلاش کردن زحمت کشیدن خداوند اونها را ضایع نمی فرماید لذا اینهای که گمان داشتند نسبت به خداوند گمان بد خدا اینها را با این سکینه با این نجات عذاب میده علیهم دائرۃ السوء لذا بر آنان است مصیبت بد مصیبت دنیا مراد هست مصیبت های دنیا بر خودشون باد گویا خداوند دعا می کند و مصیبت را میفرستد به سوی آنها و غضب الله علیهم این علیهم دایره السوء سمره دنیوی هست سمره اخروی و غضب الله علیهم خداوند بر آنها غضب فرموده و لعنهم و انها را مورد لعنت و نفرین قرار داده و اعد لهم جهنم بر آنها جهنم را مهیا فرموده و ساعت مسیرا ونجم مزمت انجا تعريف بهشت بود وكان ذلك عند الله فوزا عظيما اما مزمت جهنم است وصاعت مصيره جاي رجوع بسيار بدی هست جهنم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما خداوند عز وجل اون جمله را که فرمود ولله جنود السماوات والارض انجا تکرار می فرماید. اما هر جا این جمره برای یک هدفی ذکر شده اونجا در مقابل منافقان وقت گفته منافقان که اونها گفته ابرغدرت ها هنوز هستند اونها برای ما مشکل ایجاد می کنه. اونجا خدا جواب داد ولی اللہ جنود سماوات والارد اما اینجا که می فرماید ولی جنود سماوات والارد این مقدمه تشویق برای جهاد است یعنی مجاهدان وقتی که به خیزند برای جهاد و قیام کنند برای جهاد شکست نیست شکست نمی چون خداوند لشکریانی دارد که هم در آسمانها ها هستند و هم در زمین در آسمانها و در زمین مؤمنین ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما فقط و فقط برای الله است آسمانی و زمینی اما خداوند بدون این لشکریان هم غالب است کان الله عزیزن خدا غالب است بدون بندگان خودش خداوند می تواند با یک کن دشمنان خودش را نابود بگرداند اما حکیم است حکمت جهاد را قبلنم خاندیم خداوند حکیم هست خداوند خودش وارد میدان نشده دشمنان خودش را با کن نابود نمی کند خدای تعالی بندگان خودش را میخواد بیازماید ازمایت میخواد امتحان بکند به اونها دستور میده شما به جنگید. شما جهات بکنید. این مدال را امتیاز را شما کسب بکنید. رضایت خدا را به وسیله جهات شما حاصل کنید. موفقیت مال شما باشد. پس اینکه خداوند خودش دشمنان خودش را نابود نمیگرداند و به مؤمنان دستور میده که جهاد بکنند حکمت ها دارد عرض کردم جهاد یک حکمت و فلسفه نه ها دارد و قبلا هم این نکته را یادآوری کردم دوباره عرض می کنم که هیچ وقت نباید مسلمانان نسبت به امور دینی بی تفاوت باشند مشکلاتی اگر در جامعه ما هست فساد هست معاصی هست گناه هست بی هست ظلم هست نباید فقط به دعا بسنده کنند نباید بگویند خدا خودش درست کند نه خدا حکیم هست خودش میتونست هم عزیز هست میتونست درست بکنه هم حکیم هست خودش درست نکرده برای و تو گذاشته برای منو شما گذاشته که من شما درست کنیم پس هر وقتی که آشفتگی در جامعه وجود دارد گناهش متوجه مسلمانان هست بر گرده به مسلمانان که فعالیت نمی کنند و کان الله عزیزا حکیه حال فرائز رسول الله چون مقدمه جهاد بودرس کردم فرائز رسول الله و فرائز شاگردان رسول الله بعد از این بیان میشه. ان اینا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا ای پیامبر ما ترا در میان اینها فرستادیم تاکه شما بیان کنید حق را شاہدن یعنی بیان کننده باشید شاهد را شا عبد القادر رحمه الله نوشتن یعنی بیان کننده از طرف خدای از و مطالب را بیشان برسانید و ضمن اینکه بیان می کنید و مبشرا انهایی که تسلیم میشن اونهایی که میپذیرن دعوت شما را اونها را مجده بده و نظیرند اونهایی که نمیپذیرند اونها را بترسند بیم بده از عذاب خود اما شما مسلمانان در مقابل این شاهد و مبشر و نظیر وظیفه شما چی هست بعد از وظایف الرسول وظایف مومنین یا فرائز امت لتؤمنوا بالله و رسوله و وتوقروه وتسبحوه بُكْرَةً واصيلا فرائض امه اول ایمان هست ایمان به خدا و رسولش اینها از حقوق رسول الله هم حسن هم حقوق رسول الله اینجا بیان شده هم حقوق الله بیان شده اول ایمان به خدا ایمان به توحید ایمان به خالق و بعد ایمان به رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم و وَتُوَقِّرُوهُ و ایشون را یاری کنید توعزیره را یاری کنید نصرت کنید وَتُوَقِّرُوهُ او را تعظیم کنید احترام کنید چه کسی را؟ در باره مرجع این زمیر این دو تا زمیر اختلاف است؟ خ مشخص مشخصه تسبیحوه بکرتم و اسیلا صبح و شام کیرا تسبیح میگوییم با حقیقت بیان میکنیم الله تسبیحه ضمیر برمیگرده به طرف الله چون قبلا هم ذکر الله هست هم ذکر رسول الله است لتومنو بالله و رسوله لذا دو زمیر دیگر بسیاری می گویند که هر دو زمیر هر سه زمیر به طرف خدا هستم چون اگر ما دو تاره به طرف رسول الله راجع بکنیم یکی را به طرف خداوند میشه انتشار زمایره زمیر یکی این طرف یکی اون طرف یکی به طرف رسول الله یکی به طرف الله مقداری این نظر عربیت هم مشکل پیدا میشه مخل میشه در فهم مراد لذا اینها اینطور ترجمه و تفسیر میکنند اینهایی که میگن هر سه تا ضمیر به طرف الله است تا که شما ایمان بیاورید به خدا و رسولش و تعذروه دین خدا را یاری کنید یا ایوه الذین آمن کونو انصار الله معناه تقویفو دینه و رسوله دینش را یاری کنین و توقیروه یعنی تعزموه عظمت خدا را بزرگی خدا را کبریائی خدا را بجابی آورید و ما قدر الله حق قدره ای ما عظم الله حق عظمته بس و توقیروه عظمت او را بدانید و تسبیوه پاکی او بیان کنی صبح پس هر سه تا زمیر به طرف خداوند. اما بعضی گفتن نه. دو زمیر اولی الان عبارت علام قاضی سنواللہ فانی پتی و نظر ایشون را می خانم. ایشون می فرمای امام بغوی گفته که این دو زمیر تعذروه و توقیروه به طرف رسول الله. و تو سبح او و خداوند. معنا چی میشه؟ تا شما مؤمنین ایمان بیاورید به خدا و رسولش. و تو و ام پیغمبر را یاری کنید در جنگا در کنارش باشید. و تو قرروه محبت کنید، احترامش داشته باشید. و تو سبح او و خداوند بگوید و خداوند بگید صبح شام. لذا بغوی وقتی که این را گفته زمیر تعذروه و توقروه راجعان الی رسوله و زمیر تسبحوه الی الله تعالی اللہ ما زمخشری روی این اعتراض کرده گفته این خوب نیست چرا؟ چون انتشار زمائر پیدا میشه مخل فصاحته مخل فهمه وستبعده الزمخشری هم مخل فصاحته هم مخل فهمه ارچی که مزقیل فهم باشیم دیگه مزقیل فساحتم است وستبعده زمخشری لکونه مستلزمن لانتشار زمائر چونکه مجب میشه که یک زمیر یک طرف یک زمیر یک طرف اما خود علام قاضی صنع الله در پایان میگه از نظر من این اشکالی ندارد ببین در صورتی این انتشار زمائر مشکلی ایجاد میکرد که مخاطب نمی دونست که این زمیر کجا میره، اون زمیر کجا میره. اما اینجا اوصافی بیان شده که هر کی می این لایق رسول الله است، این لایق خداوند است. هر کی می یاری کردن برای رسول الله، تو عزیرو هو، احترام گذاشتن برای رسول الله، و تو سب بکرتن واسیل تسبیح برای خدا. پس وقتی که قرینه وجود دارد انتشار زمائر با هیچ اشکالی ندارد قلنا لا بأس به عند قیام القرینه وعدم اللبس وقتی که قرینه هست و خطر التباس نیست هیچ اشکالی ندارد والله عالم ان الَّذِينَ يُبَایعُونَ كَإِنَّمَا يُبَایعُونَ الله خداون ترغیب دادند بسوی جهاد و مراد از این بیعت بیعت الرزوان هست خداوند تعالی می فرمد آنهایی که با شما بیعت کردن زیر اون درخت در واقع انها با خدای خودشون بیعت کردند بیعت با رسول الله بیعت با خداست همونطور که اطاعت رسول الله اطاعت خداست نافرمانی رسول الله نافرمانی خداست ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله اما انا انهای باشما بیعت میکنن در واقع آنها بیعت میکنن با خدا یذ الله فوق <تصفيق> ایديهم بالای دست اونها دست خداست یعنی تایید خدا بر این بیعت است فمن نقس فانما ينكث على نفس ذختی این بیعت چنان اهمیت پیدا می کند نقض این بیعت شکستن این پیمان هم خیلی سنگین است هر کسی که این بیعت را بشکند و بهش عمل نکند چون بیعت بر جهاد است تا, تا جان در بدن داریم تا نفس در بدن داریم برای دین خدا می جنگیم ازهری حریم رسول اللہ دفاع می کنیم خب این این بیعت بود این مفاد بیعت است. پس هر کسی که نقض بیعت کرد نکس علی نفسی یعنی کتو علی نفسی خدا ضرر نمی کنه خودش ضرر میکنه. و من اوفا آف بما عاهد علیه الله، هر کسی وفا کرد بان چی که عهد کرده با خدای عز و جل اینجا وقتی که با رسول الله عهد کردی با خدا عهد کردی با خدا که عهد کردی اگر وفا به عهد کردی فسیوطیه اجرا عظیم ان قریب خدا او را میده اجر بسیار عظیم اجر عظیم خدا میده هم در دنیا هم در آخرت در دنیا به وسیله فتوحات و غنائم و شکست دشمن و حلاکت اعدا چنانچه همه اینها محقق شد در آخرت روح و ریحان و جنات نهیم اون رحم الله اعلام فرمودن خب پس تا اینجا بحث مخلصین بود صحابه بود یاران رسول الله صلی الله علیه و بود اینها گروه مهاجری و ناصر همه بودند اسیقول لك المخلفون زجر و توبیخ هست بر منافقان بر منافقان که منافقان اولا فکر نمی رسول الله برمی الان که دیدن برمی داشتن برای خودشون جواب و توجیه و بهانه آماده می کردند خدای تعالی پیشاپیش به پیغمبرش خبر داد ارز کردم این آیات در مسیر نازل شدند هنوز به منافقان نرسیدند سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ ان قریب خواهند گفت بِشُمَا مُخَلَّفُونَ مُخَلَّفُونَ یعنی هایی که عقب نگه داشته شدن پشت سر نگه داشته شدن یعنی خدا توفیقشون نداد که در این جهاد شرکت کنند در این معرکه شرکت کنند چی خواهند گفت شغلتنا اموالنا و اهلونا فستغفر لنا ما را مشغول کرد اهل و عیالمان ای فست فستغفر لنا برای ما از خداوند مغفرت بطلب برای ما بخشش بخواه خدا ما رو ببخشد که ما با شما همراهی نکردیم الله می فرماید یقولون بی السنتهم ما لیسا فی قلوبهم اینها به زبانشون می اون چیزی که در دلشون نیست این در دلشون چی چی نبود اینکه میگفتن فاستغفر لنا برای ما از خداوند مغفرت بخواه نه اینا خودشون را گناهکار نمی‌دونستان که مغفرت بخواند این را به دروغ میگفتند پس از ته دل لنا نمیگویند به ظاهر میگویند خیلی افراد هستن اعتقادی ندارم میگن بگم برای ما دعا کنه اعتقادی به دعا تو نداری لذا این یه چیز ظاهری هست هدف چیزی دیگه هست بس در دل شون این پس در دلشون این نبود این فقط با زبان میگن مال قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله خداوند رد می فرماید این ادعا را شما اگرچه معتقد نیستید اما اگر خداوند برای شما ضرری زرار را مقدر بفرماید مصیبتی را مقدر بفرماید یا خیری را چه کسی مالک هست مالک دفع ضرر یا جلب خیر غیر از خدا کسی نیست قل فمن یملک لكم من الله شیئا چه کسی مالک است برای شما سوء خداوند چیزی نفعی یا دفع زرر ان اراد بكم ضرر اگر اراده بفرماید برای شما زرر و آسیب را او اراد بكم نفعا یا اراده بکند برای شما نفع و سود را چیکسی ویتونت جل وشرب غیرت بل کان الله بما تعملون خبیرا این بل تفسیریه هست خداوند به اون که شما عمل می خبر دارد شما که نفاق در دل دارید هم خدا خبر دارد به پیغمبر چیزی میگویید که در دلتون نیست از خدا برای ما مغفرت بخواه نه شما اصلا خودتون را گناهکار نمی دانید اصلش اینه که شما این, تخ... این را تخلیفی نمی دانید حشت سر ماندید و با پیغمبر نرفتید، این را برای خودتون گناهی جرمی نمیدونید، تخلوفی نمیدانید. شما چرا نرفتید؟ به این دلیل نرفتید که شما فکر نمیکردی پیغمبر بر میگرده. الان خداوند اون چیزی که در دلشون هست، اون را اظهار میفرماید. شما اصلا فکر نمیکردی پیغمبر بر میگرده. مؤمنان بر میگردند. فکر می کردید همه اینها اونجا قلقم میشند و نه اینکه چنین فکری می کردید همین آرزو را هم داشتید همین تمنا را هم داشتید شما تو دلتون خوشحال بودید جشن برای جشن خودتون را آماده می کردید تی که این رفتم بر نمی گردند الان چرا به دروغ اظهار میکنید که ما پشیمانیم یا اظهار میکنید که برای ما مغفرت بخواه بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم بلكم میپنداشتیید انکه هرگز بر گردت رسول و مؤمنان پیش اهل و عیالشان هرگز و ذلك فی قلوبکم و آراست شده بود این چیز در دل شما یعنی همین تمنا در دلها شما زیبا قرار گرفته بود. فکر می کردی دیگه حتما پیغمبر و مؤمنان بر نمی کردند. وزن ظن انتوم زن و شما گمان بد داشتید. گمان بد نسبت به پروردگار. گمان بد اینه که خداوند پیغمبرش را کمک نمی کند. الله از خداوند خلف وعده می کنه چون خدا گفته بود من یاری می کنم پیغمبرم را یا گمان بد داشتید که ان رسول کازه بون نه این تمام گمان های شما باطل ثابت شد غلط ثابت شد و زننتم زن سو و کنتم قومم بورا شما هستید قومی حلاک شده یعنی بدلیل این هم خیانات خیانت های کفریه شما در ورطه حلاکت هستید در شرف حلاکت هستید حال خدای تعالی زمنی که منافقین را تهدید می کند باز هم در توبه را باز می گذارد تشویق می فرماید برای ایمان آوردن تشویق می برای توبه کردن اگر توبه نکردید اگر ایمان صادقانه و مخلصانه نیاوردید خودتون را برای عذاب جهنم هم آماده کنید ومن لم یؤمن بالله و رسوله هر کسی ایمان نیاورد به الله و رسولش فإننا اعتدنا للكافرین او کافر است و ما آماده کردیم برای چنین کافرانی آتش جهنم را سعیر اون آتشی را میگن که شعله می زند برای چنین کافرانی آماده کردیم و لله ملک السماوات این علت است این دلیلش است چون پادشاهی مال خدا است قدرت از آن الله است تصرف در اختیار الله است و لله ملک السماوات و الارض فقط و فقط برای الله از پادشاهی آسمانها و زمین يغفر لمن یشاؤ و یعذب من یشاؤ میبخشد هر کسی را که بخواهد عذاب میده هر کسی را که بخواهد و کان الله غفور الرحیم این تو ترغیب توبه هست اما اگر توبه بکنید اگر از کرده خودتون نادم و پشیمان بشید به خدا برگردید وکان الله غفور الرحیم خدا میبخش نه تنها اینکه که میبخش گناهان گزشتیتون را رحیم بر شما مهربان رحمی فرماید چنان لطف و مهربانی میکند که خودتون هم تصورو فکرش را نمی کردید خب پس تا اینجا زجر بر منافقان بود که این منافقان بهانه میارند به دروغ میگویند ما را ببخشید برای ما از خدا بخشش بخواهید خدا تعالی اون چیزی که در ته قلبشون بود و در درونشون بود اون را اظهار کردند الله فرمود که بی خود شعار ندید بی خود ادعا نکنید شما اصلا اعتقادی نداشتید شما فکر نمی کردید پیغمبر بر می شما آرزو داشتید که بر نگرده ولی خدای عزواجل پیغمبرش را و بندگانش را یاری و نصرت فرمود لذا اگر توبه نکنید عذاب جهنم برای شما آماده است. خب ارز کردم که بعد از جریان حدیبی خداوند مجده داد جلوتر می وعده وعدکم الله و مغانم کسیرتن تأخذونها مجدد دادند که بعد از این غنائم خداوند به شما انایت می کند اون غنائم غنائم خیبر بود که الان که با مشرکان پیمان بسته شد فتح خیبر و آزادی خیبر آسان زمینش و راهش همواره ولی منافقا هم که اینجا صد در صد پیروزی هست به این خاطر گفتن که ما با شما میاییم خداوند دستور داد هر خدا دستور داده فیصله کرده که شما نمیایید مونعفقه میگفتن شما با ما حسادت دارید شما نمیخاید چیزی به ما برسد الله تعالی فرمود که این حرف را این جمله را از روی نفهمی میگویند فرمان خدا از فرمان خدا باید اجرا بشه خدا اجازه نداده یک نفر حتی منافق در جنگ خیبر همراه بشه طور که یک نفر در جریان حدیبی همراه نبود در بیعت و همراه نبود در اون جریان هم نباید همراه بشه لذا هنوز این اتفاق نیفتاده پیشا پیش خداوند پیشگویی میفرماید سیقول المخلفون ان قریب خواهند گفت مخلفان اونهایی که عقب انداخته شدند اقب نگاه داشته شدند یعنی اونهایی که توفیق نداشتن با شما بیان پشت سر ماندند چی خواهند گفت اذا طلبتم الى مغانمه زمانی که شما بروید سوی غنائم، غنائم خیبر بروید تا تاکی اون غنائم را بگیرید، به شما چه خاند گفت؟ مقوله اون قول، ذرونا نتبعكم، ما رب ما تنبال کنیم شما را، ای پیانبر بزار که ما با شما بیاییم، الله می فرمه، یریدون ان یبدلو کلام الله. اینها میخواهند که وعده خدا را و فیصله خدا را تغییر بدند فیصله خدا چیه؟ فیصله خدا اینه که اینا نباید همراه بشند در خیبر یک منافق هم همراه نشه خدا فیصله کرده اینها با این خواسته خودشون میخوان فیصله خدا را تغییر بدند قل لنتا تبعونا ای پیامبر به اونها اعلام کن در آینده هرگز شما در این معركه خیبر ما را دنبال نمیکنید کذالکم قال الله من قبل این گوره خداوند قبل از این گفته فیصله فرموده دستور داده دستور خدا است شما نباید با ما بیایید اما چی اعتراض میکنن چی خواهند گفت فسیقولون بل تحسدوننا ان قریب خواهند گفت که واقعیت اینه که شما با ما حسادت دارید شما نمیذارید چیزی که گیر ما هم بیفته چند درهم و دینار به ما هم برسه این حرف را میگویند تا که شما همراهشون ببرید اما واقعیت اینه بلکان لا يفقهون الا قليلا اینها نمیفهمند مگر اندک یعنی نه درک ندارند نه شعور ندارند اینقدر نمیفهمند که خدا گفته نباشند باید نباشند دستور خدا باید اجرا بشه نه شما اجازه ندارید هر را با خودتون ببرید بنابراین رسول الله فرمود یک نفر هم از شما همراه نباشه فقط اصحاب هدیبیه همراه شدن اونها رفتن به طرف خیبر خدای طلاق غنایم خیبر را بیشون این آیت فرمود. قل للمخلفین من الاعراب اینجا یه ای پیشنهادی خداوند دادند به همین مخلفین به همین منافقینی که پشت سر ما دن از به خدمت شما خدا من در خیبر شما همراه نیستید اما اگر توبه میکنید اگر بر می به خدا در آینده جنگ های سختی با مردان جنگجو اتفاق میفته در گیری های شدیدی خواهد شد شما تو این درگیری ها شرکت کنید اگر راست میگویید مخلص هستید تو اون درگیری ها شرکت کنید تو اون جنگ ها شرکت کنید خب قل المخلفین اول یه خط را ترجمه کنیم بعد قل المخلفین شما بگویید به کسانی که پشت سر نگه داشته شدند عقب رانده شدند عقب مانده شدند من الاعراب ازدهاتی ها اطراف مدینه ستدعون الى قوم اولی باس شدید ان قریب شما فرا خوانده میشوید به سوی قومی که دارای جنگ شدید است یعنی سخت جنگجو هستند مردان تنومند و جنگجو شما را فرا میخوانند که شما بیایید با این جنگجویان جنگ کنید تو هم او یسلمون باید با اونها بجنگید تو قاتلون او به معنی ان هست ان یسلمون تا اینکه اونها تسلیم بشند شما باید اطاعت کنید آیا اون وقت معلوم میشه که شما واقعا برگشتید پشیمانید نادم هستید یا نه بروف میزنید از به خدمت شما که مراد از قوم اولی بأس شدید کیه بسیاری گفتند که منظور از این اهل طائف هستند و اهل, اه اهل طائف و هنین هستند که بعد از فتح مکه در سال 8 هجری رسول الله صلی الله علیہ وسلم اونها را فتح کرد یا قبائل حوازن و سقیف که در همین سال در حنین با اونها رسول الله جنگیدند پس اونها را خداوند جنگجویان میگوید چون واقعا خیلی سخت جنگیدند اونجا وقتی که رفتم بعد از فتح مکه مکه با ده هزار نفر فتح شد بعد از فتح مکه رسول الله به طرف حنین رفت دوازده هزار نفر شدن چون کسانی که در مکه ایمان آوردن هم رفتم باشند دوازده هزار نفر بودن اما اونا چنان تاکتیک بلد بودن چنان سنگر کرده بودن چنان غافلگیر کرده مسلمانان را که مسلمانان دوازده هزار نفر بودن اونا خودشون هشت هزار نفر ابتدان از هر طرف تیرها بر مسلمانان می آمد که مسلمانان پا به فرار گذاشتند میدان را خالی گذاشتند رسول الله با چند نفر در میدان ماند تا اینکه عباس رضی الله تعالی و طرف رسولات صدا زدند همه برگردید دوباره اینها شکست خوردند پس جنگ سختی بود خیلی اونجا کشته شدند و غنایم هم بیشماری به بی دست آمد چنان غنایم زیاد بود که به هر نفر از این ناموسلمانان خدا به یک نفر پیغمبر به یک نفر صد تا شطور میداد به یک نفر صد شطور اینقدر غنیمت زیاد به دست آمد ولی در این جنگ بسیاری از همین منافقان توبه کردند همراه شدند و شرکت کردند بازی هم شهید شدند. bazı ها خداوند ایمان را برایش مقدر کرد، موفقیت را برایش مقدر کرد، شهید شدند. چنانچه علامه آلوسی گفته: "إن الذين غزوا بعد لم يغزوا حتى اخلصوا." کسانی که بعدا جنگیدند در کنار رسولان نجنگید نه با اخلاص جنگیدند. "حتى اخلصوا ولم يبقوا منافقين." اینها منافق نماندند همه مخلص شدند پس این قول اول که اولی باسن شدید اهل خیبر هستند ببخشی اهل حنین هستند قبایل سقیف و حوازن هستند و اهل طائف که آنها بعدن گوریختند در طائف هم درگیری شد اما قول دوم اینه که این جنگجویان سخت و شدید بنو حنیفه هستن اهل یمامه لشکر مسیلمه کذاب که مسیلمه ادعای پیغمبری کرد ادعای نبوت کرد در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اما بعد از رسول الله جنگ های بین سپاه مسیلمه و سيدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی که خلیفه شدند اتفاق افتاد جنگ یمامه مشهور است میگوین بیش از هزار نفر اونجا کشته شدند و بعضی میگن نه هزار نفر کشته شدند خیلی جنگ شدیدی بود جنگ یمامه خیلی از منافقین توبه کرده بودند در جنگ یمامه در کنار ابو بکر صدیق بوده اینجا شهید شدند لذا ولی بأس شدید اهل یمامه هستند. لشکر مسلمه کذب تا اینکه آخر خود مسلمه کشته شد خیلی صحابه هم شهید شدند. خود مسلمه کشته شد لشکرش تار و مار شد و فرار کردن یا مسلمان شدند توبه کردند. قال الظهری و مقاتل و هم, هم بنو حنیفه اهل یمامه اصحاب و مسیلمه ابن الكذاب جنانچه رافع ابن خدیج میگه قال رافع ابن خدیج کننا نقرو هازه الآیه این آیه را ما همیشه میخاندیم که قوم اولی بأس شدید کیه ولا نعلم منهم هم نمیدونی سیمینا از حتی دعا ابو بکر نصدیق الى قتال بني حنیفہ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ به جنگ بني حنیفہ مارا فراخان فعلمناهم انهم هم و قول اکثر المفسرین و رجحه البيضاوی قول اکثر مفسران همین بیضاوی هم همین رترجید داده که منظور ازین سپاهی یا ما مامحست و قول السفوم که حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید عطا مجاهد ابن جراج همین همین هم اهل الفارس ان قوم اولی بس شدید فارسی ها هستند ایرانی ها هستند که در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جنگ با اونها در گرفت اتفاق افتاد و اونها شکست خوردند پس ببینید اگر مراد سپاه امام باشد گوی خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با اشاره این آیه مورد تایید است چون خداوند دستور میده در اون روز سخت شما در کنار مسلمانان بیستید پس این گروه مسلمانان، این سپاه مسلمانان، این لشکر مسلمانان، این خلیفه مسلمانان مورد تایید الله است که منافقان را میگه اگر توبه کردید با اونا باشید و اگر مراد اهل فارس باشند، اهل فارس باشند ایرانی ها باشند که در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جنگ با اونها در گرفت و اتفاق افتاد گویا خدای تعالی اون لشکر را اون سپاه را اون خلیفه را اون جهاد را تایید می فرماید. مورد تایید قرآن هست و بعضی میگه همه اینها اولی بأسین شدید هستن چه اهل حوازن باشند حنین چه اهل یمامه باشند چه اهل فارس باشند الا ای حال خداوند می فرماید ای مخلفین ای کسانی که پشت سر مثل زنها تو خونها نشستید اگر راست میگویید وقتی که فراخان میشه برای جهاد در اون زمان همراهی کنی بابندگان من قل للمخلفین من الاعراب به اون کسانی که پشت سر و عقب ماندن از اعراب از دهاتی ها به آنها بگو قوم اولی بأس شدید ان قریب شما فراخان می شوید بی سوی قومی که دارای جنگ شدید هست خیلی سخت جنگ جو هست تقاتلون هم او شما با انها می جنگید بشان. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسنا أجر شما إطاعت كردد أزئين فرماني خدا خدا بشما مدهد أجر نيكو أجر زيبا يعني بهشت بهشت در آخرت ودر دنيا خلافت وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذاباً أليماً اگر در اون روز هم پشت دادید روی گردانی کردید کما تولیتم من قبل گونه که روی گردانی کردید قبل از این در حدیبیه اگر اون روز هم روی گردانی کردید ترسیدید دید عذب کم عذاباً علیماً. خدا شما را عذاب میده عذاب دردناک این عذاب دردناک چیه؟ جهنم هست که برای شما آماده و محیاه هست لیس علی الاعماحرج، ولا علی الاعرج حرج، ولا علی المريض حرج. و اختکه خداوند درباره اون روزها فرمودند که اون روزها در پیش از همه شما فراخانده میشود فراخانه عمومی میشه خود بخود این سوال پیش میاد که خیلی از افراد هستند که نمیتونن در جهاد شرکت کنن تكلیف اونها چی میشه؟ اینجا خداوند معذورین را مستثنه فرمودند. حکم معذورین مستثنه است. لیسه علی الاعما حرجون. اون کسانی که معذور هستند مثل کسانی که نابینا هستند، اعما هستند بر اعما حرجی نیست. بر نابینا حرجی نیست. و لا علی الاعرج حرج. اون کسی که اعرج هست، لنگ هست، می لنگد. باش معذور هست بر او حرجی نیست ولا على المریض حرج و بر مریض هم حرجی نیست کسی که بر رختخواب بیماری افتاده اون هم مستثنا است اون هم معذور هست اینها استثناء هستند و من يطع الله رسوله اون چیزی که مهم است اطاعت خدا و رسول این تعمیم بعد از تخصیص است اول دستور خاصی صادر شد یعنی جهاد حال بعد از جهاد همه احکام همه دستورات پروردگار و من یطیع الله و رسوله هر کسی اطاعت کند الله را و رسول را هر کسی باشد یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خداوند داخل میگرداند او را در جناتی که جاری است زیر درختان و قصورش نھرها و من يتولین نتیجه ی پشت دادن است نتیجه تولی هست نتیجه ترسیدن و کوتاهی در امر جهاد است هر وقتی که شرائط جهاد فراهم می شود این را خوب بیاد داشته باشیم ترسو و بزدل نباشیم حب دنیا مارا بزدل کرده هر وقتی که شرائط جهاد فراهم می شه و کسی که در رأس مسلمانان هست چه امیر مسلمانان چه علمای مسلمین به این نتیجه میرسند که باید جهاد بشه باید با دشمنان جنگید باید نگذاشت که دشمنان بلاد اسلامی را اشغال بکنند و تسخیر بکنند لذا مسلمان باید بپاقی زد اون وقت مسلمان باید بپاقی زد و هر کسی اگر زندگی خودش را دوست داشت و گفت که نه من نمی ببینم نمیخوام که گرفتار مشکلات بشم اون وقت این اعراض هست این تولی هست قطعاً این انسان و این نوع انسان ها با این تفکرات به عذاب دردناکی مبتلا می شوند یکی از دلایلی که در بسیاری از بلاد مسلمانان این مشکلات را داریم، عذاب سخت را دارند تحمل میکنند، شکنجه را دارند تحمل میکنند، ذلت و پستی را دارند تحمل میکنند. دلیلش ترک جهاد است. لذا خداوند وعید فرموده. کلا درباره باره آینده هست ومن یتوله یعذبه عذاباً علیما هر کسی که تولی بکند پشت بدهد روی گردانی کند خداوند او را عذاب دردناک میده در همین دنیا گرفتار میشه و مشکلات برایش میاد لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تأخذونها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا أنت در آياتكم اشتخان ونحن نحن في تلاوات قردوا اینها همه درباره جریان حدیبیه هست و اصحاب و یارانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم در محل شمسیه یا حدهاییه زیر درخت بیعت کردن با رسول الله بیعتشان بر جهاد بود بیعتشان بر انتقام بود شایعی که خود مشرکان این شایعه را انداختند و درست کردند این شایعه به نفت تمام شد اون این بود که عثمان رضی الله تعالی عنہ به دست مشرکان شهید شده مسلمانان با این خبر و با این شایعه احساساتی شدند و کاملا مسمم شدند بر اینکه انتقام حضرت عثمان رضی الله تعالی انور را بگیرند لذا با آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و این بیعت که این بیعت در واقع بیعت بر خون بود که جان بدند خون بدند و نگذارن که خون حضرت عثمان پایمال بشه ضایع بشه این بیعت در واقع در دل مشرکان روح بیجاد کرد وحشت ایجاد کرد و آنها ترسیدن به همین دلیل بود که زمینه بعدی صلح و قرارداد و عهدنامه فراهم شد در آیات گذشته از رکوع گذشته شما خاندید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله آنانی که با شما بیعت می کنند در واقع این بیعت با خداوند عزوجل است بیعت با رسول الله بیعت با خداوند است و بیعت با خداوند رضایت خداوند را بدنبال دارد اینجا خدای عزوجل اعلام رضایت می‌فرماید از این گروهی از این جماعتی که زیر اون درخت با آن حضرت صلی الله علیه و وسلم بیعت فرمودند لقد رضی الله یک نکته و یک قانونی که به زبان عربی هست خدمت شما ارز بکنم اون اینه که وقتی که یه جمله را می با تأکید بیان بفرمایند لام هم که لام تأکید است بر اون جمله میاد و گاهی با قد ذکر می شود که قد برای تحقیق است و وقتی که تأکید بر تأکید باشد بسیاری این را به معنی سوگند و به معنی قسم ترجمه میکنند لذا ترجمه لقد رضی الله میشه سوگند به ذات خدا قسم به خدا گویا خداونده از و جل به ذات خودش و به جلال خودش سوگند یاد میکنه که من راضی هستم این سوگند الهی یا تأکید الهی معنادار هست خدای اززوجل خدای که عالم الغیب هست درباره آینده میداند و خدای تعالی می که در آینده کسانی بر علیه آن اصحاب آن حضرت لب گستاخی می بیادبی میکنند می کنند لذا خدای عزوجل این سوگند را که می میکند و اعلام رضایت میکند در واقع جواب همه یاوگویان داده میشه وقتی که خدا راضی هست و در این کلمات رضایت که خداوند جا بیان می فرماید علت‌ها را شما بررسی بفرمایید به چه علتی خدا راضی هست اول این علت بیان میشه که خداوند بیعت اونها را مشاهده کردند و بر اساس اون بیعت به خاطر اون بیعت اعلام رضایت کردند و بعد از بیعت خداوند از احوال قلبی اونها سخن میگوید صحبت میفرماید که خدا می دوند در درون اون قلبها چه انگیزه ای وجود دارد چه عشقی وجود دارد چه احساسی وجود دارد معلوم میشه که اون انگیزه انگیزه الهی هست اون عشق برای خدا هست نه اونطوری که بسیاری از مغرزان میگویند همه اینها برای دنیا بود برای غنیمت بود برای مال بود اینجا چه غنیمتی است؟ لذا خدای عزواجل اعلام رضایت میفرماید از این جمع لقد رضي الله عن المؤمنين البته البته بتحقيق خدا راضي شد از المؤمنين اذ يبايعون كإن سبب الرزا هست إن علت الرزا هست چونك أنها بيئت ميكون باشما تحت الشجرة زير الدرخت خب انجزه بيئت شيه علت بيئت شيه فعال ما ما في قلوبهم خداوند تعالی میداند آنچه که در دلهایشون هست خدا از اسرار دلهای اونها و قلبهای اونها باخبر است. به این خاطر خدا تعالی اعلام رضایت می کند در دلشون چی هست؟ در آیات دیگر خدا تعالی بیان فرموده که در دل اونها ایمان است. در دل اونها عشق بخدا هست ولكن الله در همین سوره, سوره بعد هست ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الکفر والفسوق والعسيان خداوند در های شما محبت ايمان را جای محبوب دل شما ایمان هست وَزَيَّنَهُ فی قُلُوبِكُمْ اون ایمان را در دل شما آراسته فرمود زیباترین چیز از نظر این قلبها ایمان هست وَكَرَّهَ و الْكُفْرَ و وَالْعِسِيانِ مکروه ترین چیز مبغوظ ترین چیز ناپسند ترین چیز از نظر دلهای صحابه کفر و فسق و نافرمانی خداست پس خدا می که در این دلهای اطاعت خدا موج می‌زند ایمان به خدا موج می‌زند تقوا و خدا ترسی هست و الزمهم كلمه التقوا و كانوا احق بها واهلها در همین سوره هست که خداوند آنها را ملزم فرمود به کلمه تقوا یعنی تقوا در دل هایشون هست و كانوا احق بها این جماعت این گروه حقدارترین افراد نسبت به تقوی هستند و اهلها و اهل تقوی هستند سزاوار تقوی هستند بس صحابه به این خاطر محبوب خدا هستند که خدای و از و از اونها اعلام رضایت می فرماید چنان دلی دارند که در دل غیر از ایمان و تقوی و خدا ترسی چیزی دیگه وجود ندارد این صحابی که در بیعت رضوان بودند در این بیعت که اعلام رضایت شده قبلا خدمت شما عرض کردم 1400 نفر و یا 1500 نفر تا سال ششم هجری هرچی که ایمان آورده بودند همه بودند مهاجرین بودند انصار بودند اشره مبشره خلفای راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحه زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جررا، اینا همه بودند. تاریخ اگر بر علی اینها ایراد میگیرد خورده میگیرد تاریخ در مقابل قرآن ارزیشی ندارد، اعتباری ندارد. تاریخ را انسانها نوشتند، انسان هایی که دلشون پر از حب و بغض هست، نباید تاریخ درباره صحابه برای ما ملاک باشد نباید ما عقیده خودمون را از تاریخ بگیریم ما مسلمانان همونجا دوچار لغزش و اشتباه شدیم که عقاید را بر اساس تاریخ تنظیم میکنیم وقتی که ما قرآن را داریم چی نیازی به تاریخ داریم وقتی که قرآن همه چیز را بیان فرموده کلام الهی کلام وحی کلامی که تا قیامت محفوظ است خدا وعده فرموده که این کلام محفوظ است وقتی که در این کلام اعتقاد و ایمان وجود دارد که انسان نسبت به صحابه و چه اعتقادی داشته باشد چه باوری داشته باشد خدای از و وقتی که اعلام کرده من نیازی ندارم که به تاریخ مراجع کنم تاریخ را انسانهای نوشتند که در دورهای بعدی آمدند پر از حب و بغض بودند به خاطر خوشرخصی جلوی این خلیفه و اون خلیفه می نوشتند خلافای بعدی که آمدند خلافای عباسی خلافای عموی لذا هر که اون دوست داشتند همون می نوشتند تاریخ چطور می تواند برای ما ملاک باشد پس با این خاطر ما روی صحابه حساسیت داریم که قرآن سرپا از انها تعریف کرده تمام قرآن مدح صحابه هست تعریف صحابه هست در همین سوره ببینید در سوره بعد ببینید سوره های دیگه ببینید اولائک هم الراشدون اولائک امتحن الله قلوبهم للتقوى لِلتَّقْوَى حزب الله اولائک هم الصادقون رضی الله عنهم و رضوان عن اینا تمام درباره صحابه است قرآن وقتی که چنان با تأکید و با این حساسیت از اونها تعریف میکند ما چرا اونها را انتقاد بکنیم ما چرا دنبال یک روایت تاریخی باشیم که در فلان زمان فلان فرد چنین گفت نه برای ما قول افراد ملاک نیست برای ما قول قول اللہ و کلام اللہ ملاک است ببینید اللہ تعالی می فرماید من از اینها راضی هستم اللہ از اینها راضی هست اذ یبایعونک تحت الشجر ارز کردم اینها تمام صحابه قاطبه صحابه که معروف و مشهور هستند بسیار از انهایی که مردم از اونها انتقاد می همه اینها بودند کسی غائب نبود اللہ می فرماید اذ تحت شجره زمانی که اینها بیعت کردند یا چون که اینها بیعت کردند با شما زیر درخت فعل ما ما فی قلوبهم الله تعالی میدانت آنچه که در دلهاشون هست در روایتی هست این روایت در صحیح مسلم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره همین افراد فرمود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره احد من الذين بايعوا تحتها دار وارد جهنم نمیشه کسانی که از اصحاب شجره هستند کسی از اونها کسانی که از کسانی که بیعت کردن با رسول اکرم صلی الله علیه و در تفاصیل نوشته فقط یک نفر منافق بود یک نفر الان خیلی هستن که بگر از همه اگه خدا راضی هست پس اون منافق که بود از اونم هم یک نفر منافق به نام جد بود وقتی که آن حضرت صدا زد که بیاید بیعت میکنیم اون یکی شطرش را سوار شد و رفت اون نی آمد برای بیعت آمد برای بیعت بس با او بيئتهم فعلم ما في قلوبهم. الله ميدانت. ميدان اسآن چك در دلهاي بود. فعنزل السكينة عليهم. خداوان نازل فرمود سكينة را برآنا. إن سمره إخلاص است. سكينة وآرامش را الله طالب رنها نازل فرمود. وآثابهم فتحا قريبا. وبنها عتا فرمود، فتح و پیروزی و موفقیتی که قریب هست به همین نزدیکی ها هست خدمت شما عرض کردم که سال ششم هجری ماه زی بود که این اتفاق افتاد جریان خدبیه در دو ماه بعد از آن در اول سال هفتم خیبر فتح شد و اثاب هم فتح قریبا اشاره به فتح خیبر است خداوند فتح نزدیکی دار خداوند عزوجل به یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه و پروانه های شمع نبوت چندین پاداش داد بعضی از پاداش ها نقد در همین دنیا فورم بعد از این جریان خیبر و غنایم بیشمار خیبر چنان خدا در خیبر به اونها داد که بعد از آن وضعیت صحابه نسبت به قبل از آن برای همیشه خوب شد و چون که غرائم خیبر زیاد بود تقویت شدند و الله تعالی از هر جهت اونها را تکمیل فرمود طولی نکشید کمتر از دو سال بعد از آن یا یک سال و اندی از خیبر تا فتح مکه خیبر اوائل اوائل سال هفتم بود فتح مکه نزدیک به اواخر سال هشتم بود ماه رمضان بود لذا یک سال و اندی بعد از اون خدا تعالی مکه فتح فرمود توسط صحابه این به برکت همین مغانم بود به برکت همین عطاهای بود خدا به اونها داد لذا الله می فرمد و مغانم کثیرت یأخذونها و غنا امیز زیادی که اونها میگیرند اون غنا امرا. و کان الله عزیزان حکیما. الله عزّ و عزیز هست، غالب هست. و کارش با حکمت هست. معنا یا عزیزان حکیما اینجا چیه؟ ببین خدا غالب هست. اگر خدا در همین حدیبیه دستور میداد که جنگ بشه و میخواست که جنگ بشه غالب هست خدا قطعا مسلمانان را بر کفار پیروز میکرد غلبه میداد اما حکیمان کار خدا با حکمت است هیچ کاری بدون حکمت نیست اینکه جنگ نشد درگیری نشد اتفاقی نیفتاد و صلح شد قرارداد امضا شد در این حکمتی هست مصالحی در این صلح بود فوایدی در این صلح بود که با جنگ اون فواید و مصالح هرگز به دست نمی آمد اگر جنگ می شد ادوات همچنان بود دشمنی همچنان بود مکه فتح می شد مکه از دست کفار گرفته می شد ولی مکه فتح می شد دلها فتح نمی شد مکه مسخر میشد، قلوب مسخر نمیشد. حکمت اینه که الله عزوجل نخواست اینجا جنگ بشه، نخواست درگیری بشه، سول بشه. ولو اینکه سول به ضرر مسلمانان، اما این سول عاقبت فتحی شد. با این سول قلوب فتح شد، دلها مسخر شد، گروهها به طرف اسلام آمده. این حکمتش، و کان الله عزيزا و بعد در ادامه خداوند عز و جل اشاره می فرماید که تنها این یکی نیست، این یکی فتح نیست فتوحات دیگری در آینده هست وعده وعد فرموده خداوند با شما غنیمت های زیادی که تأخذونها شما انها را میگیرید. از خیبر دیگه غنائم شروع میشه یک غنیمت بزرگ خیبر بود یکی که بعد از فتح مکه متسلم بعد از فتح مکه هنین بود یعنی خیبر در سال هفتم هنین در سال هشتم در هنین و طائف چه غنائم خصوص در هنین چه غنائم زیادی به دست مسلمانان آمد؟ ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها خداون وعد فرمود شما غنیمت های زیادی که شما انهار میگیرید اما فعجل لك لكم هذه این یکیره برای شما نقد فرمود این یکی به صورت تعجیل به شما داد یعنی به صورت نقد به شما داد این نقدن این را دریافت کردید مبتصل بعد از هدیبیه بود اما وعده های دیگری زیادی هست این وعده های زیاد چیه بر اساس قول ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید هرچی که بعد از این غنیمت هست چه در حنین چه در طائف چه بعد از اون در فتح ایران و روم و شام و مصر و تمام بلاد هرچی که غنایم هست شامل همهی اونها میشه. هي ما قال ابن عباس و مجاهد و جمهور المفسرین ما عد الله تعالى المؤمنین من الغنائم الى يوم القيامة تا روز قیامت هرچی غنیمت به دست میاد شامل همه میشه. الله می فرماید شما اگر درست جهاد کنید غنایم زیادی برای شماست. از اللہ می فرماید وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تأخذونها الله وعد فرمود با شما غنیمت های زیادی که تأخذونها شما می گیرید انهارا فعجل لكم هذه تعجیل فرمود برای شما این یکی را نقد فرمود برای شما این یکی را و کف ایدی ناسی عنکم و باز داشت دست های مردم را از شما باز داشت بس دست های مردم را از شما یعنی چه؟ اشاره به چه جریانی هست؟ اهل تفسیر میفرمایند بعد از اینکه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به سوی خیبر را افتادند خیبری ها یهودی بودند، اما دو قبیله از قبائل عرب با اونها حلیف بودند، یکی بنو اسد، یکی بنو غطفان، و خیبری ها تا یک مقدار دلجم بودند که اونها به کمک ما می و اونها جلوی مسلمانان را میگیرند مسلمانان وقتی که به خیبر می رفتند، مسیرشون از نزدیک قبیله بنو غطفانم بود، بنو و هم حرکت کردند وقتی شنیدند که خلفای ما هم پیمانان ما در خطر هستند اونها هم حرکت کردند میخواستند راه مسلمانان را ببندند اگر میبستند و درگیری میشد خدا میدونه که مسلمانان به اونجا میرسیدند یا نمیرسیدند اما الله عزوجل پشت سر برای اونها مشکلات ایجاد کرد بعضی میگن اختلافات در درونشون بود بعضی میگن سر بود که وحشتی در اونها افتاد و برگشتند شنیدن که از طرف قبیلهشون خیلی سر و صدا میآید اینهایی که عزم کرده بودند داشتن میامدند، راه را ببندند اینا برگشتند برگشتن توفیقی حاصل نشد همچنین بنو اسد رعب و وحشتی خدا در میانشان انداخت اونها هم نتوانستن بیا با مسلمانان جنگل لذا هر دو گروه وقتی که جلوشون را خداوند گرفت اینجا اشاره به اون هست و کف فایدی الناس عنکم دست مردم را از شما باز داشت و لتکون آیتا للمؤمنین و یهدیكم سراطا مستقیما این فایدهش فایده علمیش و فایده ایمانیش برای مسلمانان است که خدا چطور نصرت می کند خدا چطور اسباب را فراهم می کند که دست دشمنان قط بشه و قلعه دشمنان سقوط بکند در همه معرکه ها و لتکون آیت للمؤمنین هست آیه و نشانات برای مؤمنین زیاد است که مؤمنی می درس بگیره عبرت بگیره نکته را بفهمه خوب می فهمه الله می فرماید اونها را باز جلوگیری کرد خداوند ولی تکون آیتا للمؤمنین تاکی این نشانی باشد برای مؤمنان و یهدیکم صراط مستقیما و خداوند شما را بر صراط مستقیم هدایت بفرماید یعنی هدایت را مستمر و دائم داشته باشد و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها غیر از این غنیمتها غنیمتهای دیگه هستن که شما قادر نیستید بر آنان هنوز شما اونها را ندیدید هنوز شما رو اونها را نیافتید خداون احاطهشون کرده اونها را هم برای شما ذخیره کرده که اشاره به غنائم بعدی هست غنائم هنین غنیمت های در ایران غنیمت هایی که در روم هست از بلاد مختلف هست و کان الله على كل شيء قدیره خداوند بر هر چیز قادر است، بر هر چیز توانا هست اون چیزی رب توانا انجام می ده کسی دیگر نمی تونه انجام بده ولو قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اینجا خداون می فرماید اگر اهل مکه می آمدند درگیر می شدند با شما می جنگیدند انها قطعا شکست می خوردند پشت می دادند چون خدای عزواجل چنان روبی و چنان وحشتی در درون دلون دلون اونها ایجاد کرده بود که اونها توان جنگ را نداشتند اما با وجود اینکه قطعا اونها شکست میخوردم باز هم برای حکمت و مسلحتی که قبلا خاندیم خدای تعالی زمینه جنگ را فراهم نفرمود بلکه زمینه سلح را فراهم فرمود لذا گاهی که یچی ز اتفاق 100 فته انسان بی خود حسرت نخورد افسوس نخورد از طرف خدا هست و خدای تعالی قط قطعا حکمتی و فلسفه درونش گذاشته الله میفرماید ولو قاتلكم الذين كفروا اگر می جنگیدند با شما کسانی که کف کردن یعنی اهل مکه لو لو البته پشت می دادند پشت می دادند بر می پشت خودشون را یعنی با شما پشت می دادند ثم لا یجدون ولیم ولا نصیر سپس نمی آفتند هیچ نو حامی برای خودشان و هیچ نو یاوری که اعتقاد داشتند که یار و یاوری ما هستند ولی و نصیر ما هستند آلیهی باطله اونها هرگز و کمک نمی کردن سنت الله التي قد خلت من قبل این بیان سنت الله است. بیان عادت الهی و سنت الهی است نه تنها اینجا همیشه وقتی که دوستان واقعی خدا و دشمنان بجنگن دشمنان توانایی جنگیدن را ندارند. سنت الهی است اون سنتی که قد خلت من قبل قبل خب از این گذاشته پس سنت الهی همیشه در بار دشمنان همینه که دشمن, دشمن کافر در مقابل مؤمن ضعیف است، ترسو است، روب و وحشت دارد ولن لن تجد الله تبدیل و هرگز شما برای سنت الهی تبدیلی و تغییر نمی عابد. امروز امروز هم همین سنت الهی هست جا به جا نشده تغییر نشده در بلادی، در جاهایی که مسلمانان واقعا جهاد می کنند در اونجا کفار ولوین اینکه از نظر جمعیت، از نظر اسلحه، از نظر پیشرفت، از نظر اقتصاد از هر نظر بهترم بیشترند، حرف اول را می زنند اما توان مقابله و مبارزه با مسلمانان را ندارند این سنت الهی است و این سنت تا قیامت تا قابل تغییر نیست و هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اصفركم عليهم این اشاره به جریان اداره در همین حدیبیه یک جریان اتفاق افتاد انجریان این بود که وقتی که بعضی از جوان های خونگرم و احساساتی مکه و مشرکین متوجه شدند که سران ما، سرداران ما دارند عهدنامه امضا می کنند، دارند توافق می نویسند و دارند با مسلمانان سلم می کنند و میخواهند به مسلمانان اجازه بدهند که بیایند اینجا تواف بکنند، سال آینده اینجا بیایند عمر بکنند، این برای اون جوانهای احساساتی و سبک قابل تحمل نبود، می گفتن چطور امکان دارد این کسانی که پدران ما را کشتند برادران ما را کشتند ما امروز اینها را اجازه بدیم بیان اینجا توواف بکنند بدون اجازه بزرگترهایشون تعدادی از جوان ها گفتند ما شب حمله میکنیم شب حمله میکنیم بر سپاه اسلام اینها اینجا هستند کاری نمیتونن بکنند جمع بزرگی بعضی میگه هفتاد نفر بودن بعضی میگه هشتاد نفر بودن اینها نیمه شب رفتند اونجای که چادر صحابه بود مسلمانان بود اونجا را رفتند که حمله بکنند کسی که اون شب و شیفت اون شب مال یک صحابیه که بسیار معروف است هم در دویدن تند رفتند و هم در تیراندازی به نام محمد بن سلامه رضی الله تعالی عنه مالشون بود. اینها وقتی که رفتند و صحابه متوجه شدند بیدار بودند محمد ابن سلمر رضی اللہ و با تابتی که این همه اینها را محاصره کرد. و همه اینها را بدون کوچکترین خون ریزی دستگیر کرد. این جوانهای خام همه دستگیر شدند خالصلا شدند خدمت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقدیم شدند. وقتی که دستهاشون بسته بود و خدمت آن حضرت آوردن آن حضرت صلی الله علیه وسلم میخواستند که حسن نیتی نشان بدند بدون هیچی بدون حتی منت اینها را رها کردن گفتم برین و دوباره از این اشتباهات نکنید اینها بالاخره شرمنده و خجل برگشتند و این حرکت و این اقدام یک اقدامی بود که به صلح بیشتر کمک کرد اونا متوجه شدند که اینها دنبال خون ریزی نیستند دنبال کشتن ما نیستند افراد ما اسیر به دستشون افتادند میتونستند از اینها هر نوع ای بکنند فشار بیارم بر ما بکشند ولی آن حضرت صلی اللہ علیه نشان دادند که ما تشنه خون شما نیستیم ما اینجا آمدیم عبادت رب من را بکنیم خانه پروردگار را تواف می بکنیم لذا این سبب شد که اونها یه مقداری انعطافشون بیشتر بشه الله می و هو الَّذی کف عیدیه هم عنکم و عیدیه عنهم الله آن عن ذاتی هست که باز داشت دست آنها را از شما و دست شما را از آنها شما را هم توفیق نداد بکشیدو شما فقط ازیرشون بکنید و رها کنید. به بطن مکه تا. در بطن مکه و در وادی مکه من بعد ان ازفرکم علیهم بعد از اینکه خداوند خداون زفر داد شما را بر اونها غالب فرمود شما را بر آنان شما دستگیرشون کردید. ولی خداون دیعز و جل دستهای شما را باز داشت حکمت و خیر در همین بود که خون اونها توسط شما ریخته نشوند و کان الله بما تعملون بصیر الله عز و جل به اعمال شما بیناست خداون میداند که شما چه اعمالی انجام می دهید خب از این آیات از آیاتی که ما خواندیم مشخص شد که الله عز و جل نمیخواستند و دوست نداشتند و همچنین زمینه را فراهم نکردند که جنگ اتفاق بیفته خب اینها حتما بندگان خوبی بودند اهل مکه که نخواستند یه وقتی به ذهن کسی به دل کسی نیاید که اینها مرد مردمان خوبی بودند نه مقتضی جنگ انگیزه جنگ و عللی که باید جنگ بشه هم بود خدای تعالی از این به بعد اون علل و مقتزیات جنگ را ذکر می فرماید که یعنی می باید با اینها بجنگید اینها کیا هستند اینا هم هستند که کفر کردند شرک کردند شما را از مسجد الحرام باز داشتند نگذاشتند شما تواف بکنید قربانی شما را باز داشتند اینا همه انگیزه ها و باعث های هست که باید با اینها بجنگیم اما از یک طرف یک سری موانع هست اون موانع رو هم خدا ذکر می فرماید در این آیات هم انگیزه ها ذکر میشه هم موانع ذکر میشه موانع اینه که دونو افراد در مکه هستند دو گروه در مکه هستند که به خاطر اونها رب مهربان می خواد که جنگ نشه یک گروهی مؤمنین و مؤمنات که ایمان آوردن قلبشون با خدا است خدا اونها رو میشناسد میدوند شما مسلمانان نمیشناسید اگر در اثنای جنگ اونها پایمال بشن اونها له بشن اونها کشته بشند بعد از اون وقتی که برای شما مشخص بشه که اینها مؤمن بودند اینها مسلمان بودند خب شما برای شما آسیب بزرگی خواهد بود برای شما غم بزرگی خواهد بود به خاطر اونها خدای تعالی نخواست که جنگ بشه دوفم بعضی از کفار که اونها خودشون هم نمیدونند. نمیدونستند. کفار و مشرکینی که در آینده مقدر بود آنها ایمان بیارند در آینده ایمان نصیب اونها بود اونها هم در میان اهل مکه بودند اونا هم شاید کشته می شدن اونها هم از بین می رفتن لذا خدای از زوجل می فرماید این مردان مؤمن و زنان مؤمنات، اگر نبودند اگر اینها نبودند در وسط اونها خبش خدا شما را دستور میداد که بجنگید پس یکی از دلائل جنگ نکردن این بود آیر توجه بفرمایید، همون لذین کفرون وصدوكم عن المسجد الحرام أول مقتزيات الجهاد أول مقتزي أول هم الذين كفروا إنها هستن كساني كفر کردن إمي تلبات با إنها بجنگي وصدوكم عن المسجد الحرام وبعض داشتن شمارا أز مسجد حرام أزورود بمسجد حرام برای ثواب، برای نماز، اینم می که باید با اینها بجنگی. مقتضی است وم والهادیا معکوفاً محله این والهدیه اتفاس بر کم، یعنی صد والهادیا. جلوگیری کردن هادی را. ها اون قربانی میگند، اون شطوری را میگند که قلاده کرده بودن برای قربان کردن در منا. پس باز داشتن اون حد را که و معکوف یعنی نگه داشتیب شده بود این یبلغ محل این که برسد به محلش محل یعنی جای حلت جای حلالش جای زبح و نهرش جای زبح و نهرش کجاست؟ منا است. پس اینها همه انگیزه ها و باعثه های هستند جنگ و جهاد اما الان موانع <تصفيق> ولولا رجال مؤمنون و مؤمنات اگر نبود مردان مؤمن و زنان مؤمنی که لم تعلمون شما اونا را نمیشناسید و نمیدانید اگر نبود چی نبود انتطاؤهم این بدل هست از رجالون اگر نبودن این مردان از سه جهت از این جهت که تطاؤهم اونها را زیر پایتون میگیرید لگت مالشون میکنید اون وقت وقتی که اونها در وسط جنگ زایه بشند کشته بشند فتسیبکم منهم معرتم بغیر علم به شما میرسد از جانب اونها معره یعنی زرر آسیب ندامت پشیمانی بیاید معل... مع از معمره ازیت آزار رمین. یعنی ازیت میشید خودتون بغیر علم چیزی که نمیدونستید از بیخبری یعنی این آسیب و این ضرر از کجا به شما وارد میشد از بیخبری از بغیر علم لذا این معنی بوده الله في رحمته من يشا این لیودخل الله میفرمایند که معمول هست برای فعل مقدر کفها خداوند جنگ را باز داشت یا یعنی اینکه ترکنا العذاب ما ترک کردیم نگذاشتیم شما اونها را عذاب بدید اونها را بکشید ترکنا القتال لیدخل الله في رحمته من يشاء خداوند داخل بگرداند در رحمت خودش هر کسی را که بخواهد لو تزیلوا اعاده لبعد دلعه داس هنوز جزا ذک نشوده خداوند می‌فرماید ولوا لارجال مؤمنون و نسامون اگر اینها نبودن اگر اینها نبودن چی باز دوباره تکرار فرمایم لو تزیلوا اگر اینها نبودن تزیلوا نه یعنی اگر زائل می شدند از جلوی راه می رفتن کنار اگر اینها نبودن لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما البته ما عذاب می دادیم کسانی را که کفر کردن از آنان عذاب دردناک اما این عذاب را ترک نال عذاب, عذاب را ترک کردیم به خاطر چی به خاطر همین مؤمنین و مؤمنات ضعیفی که شما آنها را نمیشناسید. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه خب در آیه گذشته هم موانع جنگ ذکر شد هم مقتضیات جنگ چند تا از مقتضیات جنگ بیان شد اینها کفارا اینا از شما را از راه خدا باز و قربانی ها را هم باز داشتن حال مقتضی دیگری خدا بیان می از جعل الذین کفرو فی قلوبهم الحمیه زمانی که خداوند قرار داد در دل انها حمیه را حمیه یعنی تعصب حمیه یعنی عناد و غرور چرا باید با کفار بجنگیم؟ چونکه در دلشون اناد از غرور است. انابت و حق طلبی نیست. حمیت الجاهلیه. غرور جاهلیت است. اناد جاهلیت است. تعصب نسبت به دین جاهلیت است. خب این می طلبت که باید بجنگیم. و همین در دل مسلمانان بود. اینهایی که اینقدر اناد دارن با ما. اینقدر ما. ما را اذیت کردن باید بجنگیم باشونه. اما خدای عزوجل اطمینان داد آرامش داد مؤمنین را صحابه را فانزل الله سكینته على رسوله پس الله نازل فرمود سکینه خودش را آرامش یک استراف یالله بود على رسوله بر رسولش و على المؤمنین بر مؤمنان و الزمهم كلمه التقوى و انها را ملزم کرد به کلمه تقوی یعنی بر کلمه انها را ملزم فرمود که انها در این مسیر قرار بگیرند و کانو احق بها و احلها این گواهی, گواهی بزرگی هست که خدا کلمه تقوی را برای انها قرار داد و انها را ملزم کرد و این جماعت حقدار ترین افراد نسبت به کلمه تقوی هستند نکته ای که از این آیات میگیرید، میگیریم دقت بفرمایید، خداوند کلمه احق فرمود، احق، طلا به می دانند، اولمای میدونن که سیغه اسم تفضیل است، یعنی اینها نسبت به بقیه سزاوار ترند. معلوم میشه اگر جماعتی، اگر گروهی نسبت به ایمان، نسبت به تقوى، نسبت به خداترسی، نسبت به قرآن، حق دارتر بودند، سزاوارتر بودند، خداوند اونها را انتخاب می کرد. خداوند همونهایی را انتخاب کرد برای ایمان آوردن، برای نصرت رسول الله، برای همراهی رسول الله که اونها از همه حق دارترند، از همه سزاوارترند. از اونها سزاوارتر نیست، پولدارتر از اونها بود، ابو جهل بود، ابو لحب بود، سردارتر بودند، پولدارتر بودند، بظایر زیباتر و خوشگلتر هم بودند، اما حقدارتر نبودند، حقدارترین افراد، سزاوارترین افراد به گواهی قرآن نسبت به ایمان و نسبت به تقوی همین جماعت استند لذا الله الامي فرما وكانوا احق بها انها احق دارتر استن بتقوى وخدارتسي واهلها واهل انتقوها استد لذا إن أهلية ماله همين وكان الله بكل شيء عليم خداون بكل شيء عليم است عالم است خدا ميدون ظرف را محل را قلب را قلب زرف تقوی و محل تقوی هست کدوم قلب زرف ایمان و محل ایمان است. کدوم قلب محل دین هست خدا حق را می خدا آلم الغیب هست و خدا من انها انتخاب کرد پس کسانی را که خدا انتخاب کرده ای مسلمان ای کسی که ادعایه ایمان و اسلام داری، ادعای محبت پیامبر داری، ادعای ایمان داشتن به خدا داری، جماعتی را که خدا انتخاب کرده و خدا میگوید از نظر من اینها سزاوار ترین هستن، این جماعت را بد نگو، زبانت را آلوده نکن به بدگوی اینها که این زبان در روز قیامت به عذاب خدا گرفتار میشه، اینها را الله میفرماید، حق این ها هستند و کان الله بكل شین علیم خدا علیم هست می دوند می دوند که چه کسی سزاوار هست چه کسی ارزش انکار را دارد هر کسی را بهره بهرکاری ساختند یکی برای دنیا آفرید شده یکی برای غرور و تکبر و نخووت یکی برای دین و ایمان و تغواه و خدا ترسی لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين در اینجا شبهه پاسخداده میشه سوال جواب داده میشه اون شبهه این است که رسول الله صلی الله علیه و سلام در خواب دیدند که خانه خدا را طواف می کنند عمره می کنند خواب انبیا حق است و هرچی که در خواب بینند او محقق میشه اون واقع میشه حالا سوال این است که این خواب محقق نشد رسول الله وقتی که آمدند در سال 6 هجری بدون تواف برگشتند بدون احرام برگشتند پس این خواب چرا محقق نشد این سوال خود به خود ایجاد میشه و بعضی از منافقین هم اینا مطرح کردند پس چرا اون خواب عملی نشد خدای تعالی جواب میده که حاصل جواب و خلاصه جواب اینه که حتما حتما این خواب محقق میشه ولی آیا خواب در همین سال محقق میشه؟ این که لازم نیست تو اون خواب نبود که امسال اون چه کنم که توفیق میشه امسال اون عمر نصیب میشه بلکه مطلق هست. خداوند هم میفرمايت لا تدخلوا المسجد الحرام حتماً حتماً لام تاکید نون تاکید به معنی سوگند است سوگند به ذات من که شما داخل میشید و سرهایتون رو حلق میکنید سرهایتون رو قصر میکنید بنا این لازم نیست که فوراً خواب محقق بشه یک نکته از اینجا میگیریم خدمت شما عرض میکنیم گاهی بعضی از ماها امروز خواب میبینه فردا منتظر است که خوابش محقق میشه این لازم نیست یه خواب خوبی میبینی که معنیش خوبه شاید در آینده بشه خواب حضرت یوسف علیه صلی و وسلم بعد از چهل سال به وقوع میپیونده امروز خواب دیده بعد از چهل سال اون خواب عملی میشه خوابی که رسول الله صلی علیه و سلم میبینه بعد از یک سال و اندی این خواب به وقوع میبینده سال ششم خواب دیدن سال هفتم نصیب شد پس خوابی که ماها میبینیم این خواب هم امکان داره که زمان وقوعش نزدیک باشه چه خطری هست چه مجده و خوشخبری هست بشارتی هست امکان داره که زمان وقوعش نزدیک باشه امکان داره که زمان وقوعش دیر باشه بلاخره خداوند پیش پیش بهت مجده میده که این خواب حتما عملی میشه لذا اگر خوابی دیدید فقط مطمئن باشید که این خواب یک روزی تعبیرش رخا دید اما دیر زودش را الله بهتر میداند برای بعضی ها زود برای بعضی ها دیر زیرا الله می لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق بدون شک بتحقیق بدرستی که خداوند صادق فرمودند راست فرمودند با رسولش رؤیا را به یعنی اون رؤیا رؤیای صادقی هست و اون رؤیا صادق از آب درآمد راست از آب درآمد چطور لا تدخلن المسجد الحرام حتما حتما داخل میشوید وقتی حتما حتما دو تا تأکید یا بر اساس گفته بعضی به من سوگند قسم به ذات من شما داخل مسجد حرام می شوید ان شاء الله, انشاء الله نیست وقتی خود خدا می فرماید ان وقتی خداوند می فرماید تاکید است یعنی تاکید حتما ان شاء الله داخل می شوید در آن مسجد حرام آمنینا ای داخل می شوید بعضی از اهل تفسیر میگه ان شاء الله مربوط به آمینین است یعنی اینکه خواب شما محقق بشه، تعبیر بشه، وارد مسجد حرام بشید، هیچ شکی شک نیست قسم به ذاتم داخل میشید. اما انشاءالله آمینین، اگر خدا بخواد ایمن. چرا فرموند انشاءالله آمینین؟ تا این که صحابه به فکر باشه یه وقت مشرکی خیانت نکنند، دلجم نباشند، به این خاطر به صورت قط نفرمود یعنی سال بعد که می آید همونطور که در قرارداد نوشته شد دیگه اصلحه نیارن فقط با خودشون چی بیارند شمشیر بیارند دیویس نفر هم به عنوان محافظ این لشکر تعیین شده بود بقیه شمشیرهایشون در نیام بود پس این انشاءالله معنیش اینه که اگر خدا بخواد امنیت یعنی معاذب باشید معنیش اینه محلقین رؤوسكم در حالی که حلق کننده هستید یعنی میتراشید سرهایتون را و مقصرین و کوتاهی کنید ببینی کسی که به عمر تشریف میبره به حج تشریف میبره بعد از عدای حج یا عمره موهای خودش را یا حلق می کند از بن می زند از ته زند یا قصر می کند کتاب می کند هر دو اجازه هست اما مفسرین نوشتن که اول آورد محلقین دوم دو آورد و مقصرین اشارتون الى فضل تحلیق من التقصير. اشاره به این هست که حلق از قصر افضل تره اونی که اول خدا می اون چیه؟ افضل تره محلقین رؤوسک و مقصرین لا تخافون یعنی بعد از انکه وارد شدید و عمر بجاوردید به وقت خروج هم نمی ترسید یعنی هیچ خوفی برای شما نخواهد فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذالک فتحا قریبا الله می فرمای خداون می آنچه که شما نمیدانید. حال این هم جواب این شبه است که چرا همین امثال نشد عمره امثال نشد الله می اون چیزی که شما نمیدانید دانید امثال نشد حکمتی دوش هست به همین خاطر که دل شما زیق نشه دل تنگ نشید خدا یک انعام دیگری به شما داد خدا چقدر مهربان است بندگان خودش را هم تسلی میده فجعل من دون ذالک فتحا قریبا بغیر از این فتحی که قریب هست اون فتح قریب بود یعنی فتح خیبر اون فتح را به شما داد که دل شما آرامش بگیرد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و الحق لیظهره على الدین کل اللہ عز و جل ان ذاتی هست کہ رسول را فرستاده بالهدا با هدایت یعنی سبب هدایت رسول الله و دین حق با دین حق فرستاده دین حق دین اسلام هست لیظهره على الدین کل تاکہ ان دین را غالب بگرداند بر حمی ادانی اليعليه على جنس دینی كله دین اسلام چگونه غالب هست دین اسلام اولا ناسخ همه ادیان است از این جهت غالب است دین اسلام که آمد دیگه دین یهودیت دین مسیحیت ادیان دیگه معنا نداره اونا جز دین های باطل جز خرافات دیگه به حساب میاد امروز اگر کسی بیاید و بگوید که من اون چیزی که در تورات است به او هم عمل می کنم او دو خرافات شده دوچار بدعت شده پس از این جهت این دین دین غالبی است. اونها را از بین برد و دیگه از نظر حجت قبلا خدمت شما عرض کردم تمام دسیسه ها و نقشه های دشمنان بر علیه اسلام است. بر علیه قرآن هست باوجود که این همه دسیسه دارند، بعض هم اسلام از نظر حجت غالب است، از نظر دلیل و برهان غالب است، از نظر اینکه هر سال هزاران نفر می آیند به طرف اسلام، نه انسان های عادی که محتاج پول باشند، مسلمانان پول ندارند، بسیاری از کشیشها، بسیاری از پاپها، بسیاری از اساتید دانشگاه، بسیاری از از کدام مخترعان دانشمندانشان این دلیل چی هست دلیل اینه که دین اسلام دین غالبی هست لیظهره علی الدین کله وکفا بالله شهیدا خداوند کافی هست از نظر اینکه گواه هست خداوند گواه هست علی ان ما وعده کائنون ان چیزی که خدا وعده کرده اومیش خدا بر این گواهی هم میده. محمد رسول الله این محمد رسول الله بیانه هو الَّذی ارسل رسوله بالهداست. خداوند رسول خودش را همراه با هدایت فرستاد اون رسول کیه؟ کسی فکر بکنه منظور ایساست موساست پیغمبر دیگه هست نه. هو محمد رسول الله او محمد صلی عليه و وسلم که فرستاده و رسول خداست او را خداوند تعالی فرستاد بنده خدمت شما عرض کردم که در قرآن کریم چهار جا نام نامی و اسم گرامی حضرت رسول صلی اللہ علیه و وسلم ذکر شده هر جا یک حکمتی هست یک ای هست و کار حکیم خالی از حکمت نیست اینجا چرا محمد رسول الله گفتند هر جا با رسول و با نبی و با القاب دیگر الله عزوجل ایشون را یاد میکنند. کنند علما می دلیلش اینه که وقتی که در سلح حدیبیه معاهده را میبستند بستند غرارداد را میبستند کاتب و نویسنده سیدنا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه بودند و استرفه مشرکان سهیل ابن عمرو که اون وقت هنوز ایمان نیاورده بود ایشون بودند وقتی که عهدنامه را سیدنا علی نوشت نوشته کرده هاذا ما عهد علیه محمد الرسول الله و قریش مکه این ای هست این ای هست این توافق ای هست که بر این توافق کردن محمد رسول الله و قریش مکه اون گفت که چرا محمد رسول الله نوشتی؟ بنویس محمد ابن عبدالله چرا؟ گفت ما ایشون را به عنوان رسول الله قبول نداریم اگر به عنوان رسول الله قبول داشتیم که بین من و شما اختلاف نبود ما محنه شما نمی شدیم جلوگیری شما نمی این همه جنگا نمی کردیم چون ما به عنوان رسول خدا قبول نداریم باید پاک کنی اینجا بود که بر سیدن علی سنگین تمام شد سیدن علی سوگند یاد کرد که من چیزی که نوشتم پاک نمی کنم سیدن عمر رضی اللہ تعالی احساساتی شد و از بس که ناراحت شد خدمت شما عرض کردم میرفت خدمت ابو بکر صدیق بخی اصحاب مثل شیر می میغرید که مگر ما بر حق نیستیم چرا ما بخاسته اونها عمل بکنیم ما چه ضعفی داریم اما ان حضرت صلی الله علیه و سلام فرمودند که چنان حضرت مسمم بودند که این صلح بشه این قرارداد و این توافق بشه آن حضرت فرمودم پاک کنید من هم رسول خدا هستم هم فرزند عبدالله هستم من هم محمد ابن عبدالله هستم هم محمد رسول الله هستم اشکال نداره پاک کنید حضرت علی پاک نکرد گفت به من نشان بده کجاست من خودم همونجا خط می کشم به آن حضرت همون کلمه را نشان داردن کلمه رسول الله را آن حضرت خودش پاکش کرد و خود آن حضرت با دست مبارکش اون جمله را دور کرد و گفت ابن عبدالله بنویسید لذا مفسرین نوشتند چون که اونها محمد رسول الله را برداشت نکردند تحمل نکردند روی یک ای که اون برگه موقتی بود یک عهدنامه بود یک قرارداد بود لذا الله عز و جل جای گزین آن بجای آن در این سوره آوردن محمد رسول الله فرمودن که تا قیامت قراءت میشه تا قیامت تلاوت میشه در نماز و در بیرون نماز و هر جا این در عوض اون جمله بود از اونجا پاک شد اینجا ثبت شد رضا الله میفرماید محمد رسول الله اون پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم است اون محمدی که رسول خداست فرستاده خداست زین و بعد از این الله عزوجل در کنار رسول الله که رسول الله را تعریف کردند و دینش را که فرمودند دینش بر همه ادیان غلبه می کند بیان فرمودند حال شاگردان آن حضرت را تعریف می کند سبحان الله با چه کلمات زیبای اللہ می فرماید وَالَّذِينَ اشداء على الكفار رحما بينهم كسانك باو همرا هستند معیت رسول الله را دارند همراهی رسول الله را دارند بعضی گفتند که مراد از معه یعنی در حدیبیه همراه استند اما جمهور معتقدان که معه او متلاقص در حدی نیست و اللهین معه کسانی که حمربا رسول الله استان در هر جا در همه میادین تمام سا بر شامل میشه تنها این هزار پونصد نفر رشامل نمیشه قال الجمهور جميع أصحابه صل الله عليه وسلم و رضي الله عنهم روح المعانی تفسیر قرطبی هم میگه و كون الصفات في جمله اصحاب النبی هو الاشبه صحیح تر درست اینه که همه صحاب مراد باشند والذین الذين معه عام است کسانی که با او هستند دارای چند صفت هستند یک اشداء على الكفار بر کفار سخت ای غلازون علیهم بر کفار غلیزند، تندند، شدیدند به قول بعضی کل اسد علی فریستی اسد اصد چطور شیر چطور بر شکارش حمله می کند اونا در مقابل کفار همچنین همینجا خاندیم در داستان وقتی که کفار می آمدند و اون شرایط را مطرح می کردند صحابه بیتاب بودند مثل شیر میخواست حمله بکنن، ناراحت بودن، لذا اشده والا کفار. اما در میان خود، فی ما بین هم، روحما و بینهم با هم دیگه چی بودند؟ روحما محربان، با هم دیگه محبت داشتند. خوب گوش کن این گواهی قرآن هست، قرآن و خدا میگه که صحابه با هم محبت داشتند، صحابه و اهل بیت همه صحابی بودند اهل بیت هم صحابی هستند صحابه هم صحابی هستند اینا با هم محبت داشتند تاریخ مثلا تاریخ میگه با هم محبت نداشتند الان حرف قرآن را قبول کنیم یا حرف تاریخ را قرآن روحما و بینه هم پس اون روایتی که میخواد اثبات بکند که اینها با هم دشمن بودند اون دروغه اونی که بلاخره و دشمنی اینها را نشان میده. اون دروغه. خب بعضی جنگ ها مثل جنگ جمل، جنگ سفین یا صفین، این جنگ ها بود. شک کی تو این جنگ ها نیست. این جنگ ها را چی کسانی در واقع آتش جنگ ها رو کردن منافقین. در دو طرف قرار دادن به جان هم انداختن صحابه، هیچ کی نمی که همین جنگ ها بشن. اگر میخواید حقیقت این جنگ ها را بدانید کسانی که در این جنگ ها شهید شدند مثل تلحا مثل زبیر به گواهی سید علی رضی الله تعالی نهو که به قاتل این صحابی بزرگوار بشارت جهنم داد او گفت که خوشخبری داد که من کشتم تلحا را گفت که شما به شما مجذب جهنم باد تو صحابی رسول الله را که از اشره مبشرات کشتی؟ و افتخار میکنی در همین جنگ ها باوجود, باوجود که جنگ بود نخواستن صاحب جنگ بیشه وقتی که رومی ها قصد تعرض داشتن سیدر معاوی رضی اللہ تعالیٰ اعلام میکنه به شاه روم که اگر چنین قصدی و نظری داری اولین کسی که به عنوان سرباز علی تو میجنگن معاوی خواهد بود من به عنوان سرباز علی در صف مقدم خواهم بود در همین جنگ سیدنا علی وقتی که میخاند شطور آیشه را بیارند توصیه میکند و کلمه ام المومنین را میگه ببینید ام المومنین اذیت نشه اینها با هم عداوت نداشتند اختلاف داشتند دو تا برادرم با هم اختلاف داشتند اختلاف استهادی داشتند در این اختلاف داشتند که آیا اول خلافت و آیا اول بیعت یا اینکه اول قصاص از قاتلان عثمان رضی الله تعالی سیدنا علی گفت اول باید حکومت تسبیت میشه و حق هم بایشون بود بقیه بر خطای اجتحادی بودن اختلاف در مسئله با هم داشتن اما بغض نداشتن محبت داشتن کسی بیاد از این جریانت بغض را ثابت بکنه. پس آیه قرآن را چی توجیم میکنه قرآن همه را میگه با هم چی بودن روحما و بین هم با هم دیگه مهربان بودند و در ادامه او سافس را رمی فرماد، الله می فرماد. تراهم رکان سجده. این اشاره به کسرت نماز سهاب هست. سهاب زیاد نماز می خواندند. یک مامنت مومن عاشق الله زیاد نماز می خوند خودش را خسته می کند از نماز خوندن تراهم انها را می بینی رکعن رکو کننده هستند سجدن سجده کننده هستند این همه نماز این همه رکو این همه سجده این همه جهاد برای چی هست؟ الله تعالی اینجا شهادت میده بر اخلاص صحابه گواهی بر لالهیت. و اخلاصشون هست یا بترون فضل من الله و رضوانا هم می طلبن فضل از جانب الله و رضوان و رضای الله کفى بذلك شرفا این شرف برای صحابه بسه خداي احکم الحاکمین گواهی میدهد که آنها دمبال فضل خدا و رضای خدا هستند طالب رضای مولا هستند دیگه ایش شرفی از این بالاتر نیست. سیماهم فی وجودیم من اثر سجود. این از کنم که بیان علامت قرب و محبوبیت است. این قدر محبوب خداست که سیماهم سیما اونها سیما علامت اونها فی وجودیم برچهرهایشون هست من اثر سجود از اثر, سجده از اثر سجده بر چهره شان یک سیمایی هست این سیما در واقع نوری هست توضیح سیما نوری هست که خدای تعالی به برکت کسرت عبادت و کسرت سجده در چهره ایجاد کرده چنان نوری هست که وقتی که شما اون نور را ببینید از دیدن این نور خوشتون بیاد لذت ببرید و چنان نوری هست که وقتی که شما ببینید اون را بیاد خدا بیفتید همین که آمده که علامت مردان خدا اولیاء خدا اینه که وقتی اونها را میبینی بیاد خدا میفتی چنان نوری هست پس ببین مراد سیما نور هست مراد سیما اثر سجده نیست اثر سنگ و مهر و زمین نیست بعضی ها فکر میکنن همین سیاهی که اینجا روی پیشانی است، این را میگن سیما لذا بعضی میخوان این سیما را داشته باشه هر کسی میتونه سیما را داشته باشه برو تا نیم ساعت روی سنگ بمال بعد از اون سیاه میشه این نیست اگر این بود اون وقت گفته میشه سیما هم فی جباه هم این سیما روی چیه؟ روی پیشانی است. اما فرموز سیما هم فی وجود هم، این سیما کجاست؟ است؟ چهره هست، در حدیث شریف می که به برکت کسرت عبادت و کسرت سبجود خدای عزوجل یک نوری در چهره عابد و انسان مخلص پیدا می کند که با اون نور دوست داشتنی میشه. پس اون نور مراده هست، اون سیما مراد هست اونی که در کل چهره هست اونی که عرض کردم وقتی که اون سیما را ببینی اون نور را ببینی بیاد خدا می میافتی پس الله می فرماید سیماهم فی وجوههم من اثر السجود علائم این جماعت و علامت این گروه علامت قرب علامت محبوبیت علامت عبادت در چهره های شناس از اثر سجود که خداوند اون نور را پیدا فرمود ذالک مثلهم فی التورات بعد از اینکه که خداوند این وصف را برای صحابه بیان فرمود می فرماید این وصفشون در تورات است در تورات اینجور آمده و مثلهم فی الانجیل اما در انجیل جوری دیگه آمده توری دیگه آمده بنابرا قول اکثر إن جاء توقف هست ذلك مثلهم في التورات بعض جملية ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه. ان مثال بعد تو إنجيل آمده بعض انتور مخانا ذلك مثلهم في التورات ومثلهم في الإنجيل نعم بنابرا قول الراجح إن درس نيست چرا؟ أجر في الإنجيل أتفض بر التورات او وقت مثال را نمی آوردند اینطور می خواندیم ذلک مثلهم في التورات والانجيل این مثال آنها در تورات و انجیل این وصف آنها در تورات و انجیل اما این وصف آنها در تورات بس اینجا توقف بکن و مثلهم في الانجيل خدای عزوجل صفاتی که در انجیل بیان فرموده برای یاران نبی خاتم خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم اون را انجام بیان فرموده کزرع اخرج شطه او مثل یک زرعي مثل ایک کشتی زراعتي که اخرج شطه او ابتدا چی اشر بیرو میکنه جوانه اشرا وقتی که را تو زمین بندازی، اول اول ابتدای ابتدای یک جوانه ی از زمین بیرون میاد، فا او را تقویت می کند، او را که تقویت کند خداوند تقویتش بکنه فستاغ لازم، او ضخیم میشه، کلفت میشه. ف استوا سوقی او و بر ساقش میسته چنان قد می کشه چنان بلند میشه بزرگ میشه مثل قد انسان يعجب الزرع که کشاورز را زارعين را کشاورزان را خوشحال میکنه او را وقتی که میبینه خوش میشه میپسنده او را ببینید این را کشاورز خوب میدوند که روز اول وقتی که بعض را مندازد مدتی میگذرد بعض را تازه از زمین میاد بیرون خوش میشه مقداری بزرگ میشه بزرگ میشه آخر وقتی اندازه قد میشه وقت دروش میرسه چقدر خوشه احساس میکنه دیگه جیبم پر پول میشه اون دیگه خوشیش حدی ندارد لذا الله عزوجل این مثال را برای اصحاب و یاران عن حضرت صلی علیه و وسلم بیان فرمودند چطور اللہم آلوسی نوشته که هو مثل ضربه زرب الله لصحابه این مثالی هست که خدا برای صحابه بیان فرمودند والمعنا عظ ها ببخشید ذره به الله و الصحابه بدا الاسلام ثم کثروا واستحکموا اغاز شد آغاز اسلام اونا خیلی در اقلیت بودن در اندک بودن بعدم بیشتر شدن مستحکم شدن قوی شدن فطر امرهم یوما فی یوم امر اونها معامله اونها روز روز به پیش میرفت بحیث و عجب الناس بصورتی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که کشتکار بود، زارع بود، کشاورز بود، رسول الله را خیلی خوشحال کرد. بالخصوص وقتی که در حجت الودا، در عرفات، آخرین ملاقات با همه بود، با جم بود، همه را خطاب کرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. آن حضرت یک خورسندی خاص داشتند جماعتی بود که صدا تا آخر نمی رسید از بس زیاد بودند فرمود که آیا پیام خدا را به شما دادم یا نه همه گفتم بله یا رسول الله سبار بار الله را شاهد گرفت اللهم اشهد اللهم مشهد. لذا این همون روزی بود که دیگه این کاشت و این زراعت به اوج به کمال رسیده بود پس الله عز و جل مثال بیان می فرماید صحابه را که در انجیل انطور مثال اصحاب و یاران نبی خاتم آمده که ابتدا مثل جوانه یک نفر ابتدا یک ابو بکره از بچه‌ها سیدنا علی علیه از زنان خدیجه هست کم کم کم کم ابوبکر میره دعوت میده ابتدا هر چی که مسلمان شدند به برکت دعوت ابوبکر بود عثمان را میاره عبدالرحمن ابن عوف را میاره بقیه را میاره یک به یک میاره مسلمان میشن لذا رو تقویت میکنه فاستغل زخیم میشه فاستو على سوق بساقش بس میفته میسته یعجیب الزراح که زارعین را، کشاورزان را، زحمت کشان را خوشحال میکنه لیغیظ بهم الکفار، این لام لام عاقبته برای این دعوت ندادن که کفار به غیز بیفتند نه برای این دعوت دادن که کفار هم مسلمان بشند اما این لام لام عاقبت و نتیجه نتیجه میشه که کفار از این غیز میشه کفار از این چی میشه؟ وقتی که این جماعت پاکان را ببیند عصبانی میشه به خشم و غیظ میفته حضرت امام مالک رحمه الله می فرماید این آیه فقط درباره انهایی که با اصحاب رسول الله در ابتدا دشمنی داشتند و روز بروز روز امر صحابه به پیش می رفت و ترقی میکرد فقط درباره اونها نیست اونها تنها عصبانی نشدند هر کسی که در دل او کوچک ترین غیظی از اصحاب رسول الله باشد بغضی از اصحاب رسول الله باشد مستاقینا هست این آیه هم چون تیری قلبش را هدف قرار میده قال مالک رحمه الله من اصبح من الناس في قلبه غيظ من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و هر کسی در قلبش غیظی باشه بغضی باشه نسبت به صحابه رسول الله فقط اصابت هذه الآیه این آیه چی هست او را هدف قرار میده می خورد بقلبش لذا الله می فرماید یعجب الزرعا لیغیظ بهم الکفار تاک بغیث و بخشم در بیاورد کفارا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد فرموده اللہ با آنهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن من هم این من من معکده هست من تاکید می کند اللہ وعده فرموده یعنی با آنها هم بیان آمن و عمل صالحت هست هم تاکید خدا با اون صحابه وعده کرده خدا با یاران رسول الله صلی اللہ و سلم وعده کرده چه وعدهی؟ مغفرتن و اجر عظیم الله وعده مغفرت فرموده و وعده اجر عظیم را فرموده اجر و پاداش بسیار عظیمی خدا به اینها انایت می فرماید خب این بود سوره مبارکه فتح که در این سوره فتح را و جریان حدیبیه را و اینکه اون خواب محقق شد و تعبیر شد خاندیم و زمان ذکر و یاد اصحاب و یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم